در روز پایانی از سال دوم دبیرستانم، یک چوب بیسبال وسط صورتم کوبیده شد. همین که همکلاسی‌ام هم چوب را کامل چرخاند از دستانش رها شد. کنن به سمتم آمد و مستقیم وسط دو چشمم نشست. لحظه برخورد را اصلاً به خاطر ندارم. چوب با چنان شدتی به صورتم خورد که دماغم را خرد کرد و به شکل یو کج و معوجی درآورد این برخورد باعث شد بافت نرم مغزم به داخل جمجمه هم کوبیده شود. همان لحظه دنیا دور سرم چرخید. در کسری از ثانیه دماغم شکست. جمجمه هم چندین ترک برداشت و کاسه چشمانم هم داغون شد. وقتی چشمانم را باز کردم دیدم بقیه به من زل زدند و برای کمک به این سوانسو میدوند. به پایین نگاه کردم و متوجه لکه های قرمزی روی لباس هایم شدم. یکی از همکلاسی‌هایم هایم پیراهن داخل کل را بیرون آورد و به من داد. از آن برای بند آوردن جریان خون دماغ شکستم استفاده کردم. شوکه و سردرگم بودم و نمی دانستم آسیب چقدر جدی است. معلم دستش را دور شانه انداخت من و مسیر طولانی تا دفتر پرستار مدرسه را طی کردیم. در این مسیر، باید از کنار زمین، پایین تپه و پشت مدرسه عبور می کردیم. دست افراد مختلف بغلم را می گرفت و من را سر پا نگه می داشت. عجله نکردیم و به آرامی راه می رفتیم. هیچ کس متوجه نبود که هر یک دقیقه زودتر رسیدن هم می تواند مهم باشد. وقتی به دفتر پرستار رسیدیم، او چند سؤال از من پرسید. الان چه سالیه؟ جواب دادم، 1998. در واقع دو هزار دو بود. رئیس جمهور آمریکا کیه؟ گفتم بیل کلینتون. جواب صحیح جورج بوش بود. اسم مامانت چیه؟ هنگ کرده بودم. ده ثانیه گذشت. خیلی تصادفی گفتم پتی؟ و این نکته را نادیده گرفتم که ده ثانیه طول کشید تا نام مادر خودم را به خاطر بیاورم این آخرین سوالی است که یادم میآید بدنم قادر نبود التهاب سریع مغزم را کنترل کند و پیش از اینکه آمبولانس برسد بیهوش شدم چند دقیقه بعد من را از مدرسه بیرون بردند و به بیمارستان آن منطقه رساندند اندکی پس از رسیدن بدنم کم کم داشت تعطیل میشد. برای کارهای ساده ای مثل قورت دادن آب دهان و نفس کشیدن هم کلنجار می رفتم. اولین حمله هم در آن روز را تجربه میکردم. اینجا بود که نفسم کاملا قطع شد. وقتی پزشکا خیلی سری با منبع اکسیژن سراغم آمدند، تشخیص دادند که بیمارستان منطقه برای کنترل چنین شرایطی مجهز نیست و هلیکوپتری سفارش دادند تا من را به بیمارستان بزرگتری در سینسینتی ببرد من رو از در اتاق اورژانس بیرون آوردند و به سمت محل فرود هلیکوپتر در آن طرف خیابان بردند. تخت روی پستی و بلندی های پیاده رو تکان می‌خورد، در حالی که یک پرستار هل می‌داد و دیگری با دست پمپ اکسیژن را جلوی دهانم گرفته بود. مادرم که چند لحظه قبل به بیمارستان رسیده بود، سوار هلیکوپتر شد و نزدیکم نشست و دستم را حین پرواز گرفته بود. هنوز هم هوشیار نبودم. و نمی توانستم خودم نفس بکشم. مادرم با من سوار هلیکوپتر شد. اما پدرم به خانه رفت تا ببیند برادر و خواهرم چه کنند و به آنها خبر بدهد. او در حالی که بغزش را کنترل می کرد به خواهرم توضیح داد باید جشن فارغ و تحصیلی سال هشتم خود را در آن شب بیخیال شود. پس از اینکه خواهر برادرم را به خانواده و دوستان سپرد به سمت سینسیناتی رانندگی کرد. تا به مادرم بپیوندد وقتی من و مادرم روی سقف بیمارستان فرود آمدیم تیمی متشکل از حدوداً 20 دکتر و پرستار به سمت محل فرود هلیکوپتر دویدند و با ویلچر مرا به سمت واحد تروما بردند تا آن لحظه التهاب مغزم آنقدر شدید شده بود که حملات پس از حادثه تکرار میشدند. استخوان‌های شکسته شکستم را باید جا جامی انداختند اما در شرایطی نبودم که بخواهم تحت جراحی قرار بگیرم پس از یک حمله دیگر، یعنی سومین حمله ی روز، خودشان من را در حالت کما قرار دادند و داخل دستگاه هوارستان گذاشتند. والدینم با این بیمارستان قریب نبودند. ده سال پیش، پس از تشخیص بیماری لوسمی یا همان سرطان خون خواهر سه ساله هم وارد همین ساختمان شده بودند. آن زمان پنج ساله بودم. برادرم فقط شش ماه داشت. پس از دونیم سال شیمی درمانی تزریق نخایی و بافت برداری مغز استخوان، خواهر کوچکم بالاخره توانست خوشحال، سالم و رها شده از سرطان از بیمارستان بیرون بیاید. همکنون هم پس از ده سال زندگی عادی والدینم خودشان را در همان مکان این بار برای یک بچه دیگر میدیدند. وقتی من را به کمما فرستادند بیمارستان یک کشیش و مددکار اجتماعی فرستاد تا والدینم را تسکین دهند. همون کشیشی که یک دهه پیش با آنها ملاقات کرده بود در همان غروبی که متوجه شده بودند خواهرم سرطان دارد. وقتی روز رفت و شب فرا رسید مجموعه ای از دستگاه ها مرا زنده نگه داشته بودند. والدینم خسته و کلافه روی تشک بیمارستان خواب بودند. یک لحظه از روی خستگی بیهوش می شدند و لحظه بعد با نگرانی از خواب می پریدند. مادرم بعدها به من گفت یکی از بدترین شبهایی بود که تجربه کرده بودم. بازیابی من خوشبختانه صبح روز بعد نفس کشیدنم دوباره به حالتی برگشته بود که پزشکان بتوانند با خیال راحت من را از کما بیرون بیاورند. وقتی آگاهیم به صورت کامل برگشت، متوجه شدم حس بویاییم را از دست دادم. برای آزمایش این موضوع، پرستار خواست فین کنم، و سپس یک پاکت آب سیب را بو بکشم. حس بویایی برگشته بود، اما در کمال تعجب همگان اقدام به فین کردن باعث شد هوا به داخل ترکهای های کاسه چشمم نفوذ کند و چشم چپم به سمت بیرون هل داده شود. کره چشمم از کاسه بیرون زده بود و به سختی توسط موجها و عصب بینایی که چشم را به مغز متصل می کند در جای خود منده بود. چشم پزشک گفت، چشمم به تدریج و پس از خالی شدن هوا به جای اصلی خود باز می گردن. اما نمی‌شد گفت این پروسه چقدر طول می کشد. یک هفته بعد وقت جراحی برایم گذاشته بودند و بدین ترتیب زمان بیشتری برای خوب شدن داشتم. قیافم طوری بود انگار در مسابقه بوکس با یک فرد قوی شرکت کردم، اما ترخیصم کردند. با دماغی شکسته، کلی ترک روی صورت و چشم چپ از هدقه بیرون آمده به خانه برگشتم. ماهای بعدی دوران سختی بود. انگار همه چیز در زندگیم متوقف شده بود. چند هفته دوبینی داشتم. نمیتوانستم صاف نگاه کنم. بیش از یک ماه طول کشید تا بالاخره کره چشمم به موقعیت معمولش برگشت. بین حملات و مشکلاتی که در بینایی داشتم هشت ماه گذشت تا بتوانم دوباره پشت فرمان بنشینم در فیزیوتراپی بیشتر روی اولگوهای حرکتی ابتدایی مانند راه رفتن روی خط مستقیم تمرین می کردم. ازمم را جزم کرده بودم تا نگذارم مستومیت زمین گیرم کند. اما چندین بار پیش آمد که حس افسردگی و درهم شکستن داشتم. با درد و رنج متوجه شدم باید خیلی تلاش کنم تا دوباره به زمین بیسبال برگردم و این پروسه یک سال طول کشید. بیسبال همیشه بخش بزرگی از زندگی هم بود پدرم در لیگ رده پایین برای سنت لوئیس کاردینالز بازی می کرد و من هم رویای بازی به صورت حرفه ای را داشتم پس از ماها توان بخشی بیشتر از همه دلم برای پاگذاشتن در زمین بیسبال تنگ شده بود اما راه بازگشتم به بیسبال آنقدر هم هموار نبود وقتی نیم فصل شد تنها سال سومی بودم که از تیم بیسبال اصلی دانشگاه کنار گذاشته شد را فرستادند تا با سال دومی ها در تیم دوم بازی کنم. از چهار سالگی بازی می کردم و برای کسی که اینقدر تلاش و زمان روی این ورزش گذاشته است، خط خوردن بسیار تغییرآمیز بود. به خوبی روز این رخداد را به خاطر می آورم. در ماشینم نشسته بودم و گریان پیچ رادیو را می چرخاندم تا بتوانم آهنگی پیدا کنم که حالم را بهتر کند. پس از یک سال تردید به خودم توانستم به تیم اول دانشگاه برگردم اما به ندرت می توانستم داخل زمین بروم در مجموع یازده دور در تیم اول بیسبال دانشگاه بازی کردم که سرجمع به اندازه یک بازی هم نمیشد صرف نظر از دوران تاریکم در دبیرستان کماکان اعتقاد داشتم که می توانم یک بازیکن بزرگ شوم میدانستم اگر قرار است اوضاع بهتر شود باید خودم برایش تلاش کنم نقطه تحول دو سال پس از مستونیت فرار رسید زمانی که وارد دانشگاه دنیسون شدم این یک شروع جدید بود و آنجا جایی بود که برای اولین بار توانستم قدرت غافل گیر کننده عادات کوچک را درک کنم چگونه درباره عادت ها یاد گرفتم حضور در دنیسون یکی از بهترین تصمیمات زندگیم بود توانستم جایی در تیم بیسبال پیدا کنم و اگرچه به عنوان یک تازه کار همواره در انتهای فهرست بودم، هیجان داشتم. صرف نظر از هرج و را در سالهای دبیرستان، توانستم به یک ورزش کار دانشگاهی تبدیل شوم. انتظار نداشتم به این زودی ها در تیم بیسبال کارم را شروع کنم. بنابراین، روی این تمرکز کردم که به زندگیم نظم بدهم. در حالی که دوستانم تا دیر وقت بیدار می و با کنسول بازی میکردند ساعت خوابم را تنظیم کردم و هر شب زود به رخت خواب میرفتم. در دنیای به هم ریخته خوابگاه، هدف گذاری کردم که اتاقم را تمیز و منظم نگه دارم. این بهبودها ها جزئی بودند، اما باعث شدند کنترل بیشتری روی زندگیم داشته باشم. دوباره حس اعتماد به نفس داشتم، این افزایش اطمینان به خودم در کلاس درس هم جریان پیدا کرد زیرا عادت درس خواندنم هم بهتر شد و توانستم در سال اول در همه دروس نمره ای بگیرم عادت روتین یا رفتاری است که به صورت مداوم انجام می شود و اغلب به صورت خودکار رخ می دهد. با گذشته هر ترم عادت کوچک اما پایداری را جمع می کردم که در نهایت باعث شدند به نتایجی برسم که ابتدا در مخیلم نمی کنجید. مثلا برای اولین بار در زندگیم عادت کردم هفته چند بار وزنه بلند کنم و در سالیان بعد هیکل 192 سنتیمتریم از 77 به 90 کیلو بدون چربی رسید. وقتی سال دوم از راه رسید، توانستم از ابتدای بازی در بخش پرتاب کننده ها حضور پیدا کنم. در سال سوم به عنوان کاپیتان تیم انتخاب شدم و در انتهای فصل برای تیم منتخب برگزیده شدم. اما تا سال چهارم و آخر طول کشید تا بلاخره عادات خواب، مطالعه و تمرینات قدرتیم کم کم جواب دادند. شش سال بعد از کوبیده شدن چوب بیسبال به صورتم، به عنوان بهترین ورزشکار مرد در دانشگاه دنیسان انتخاب شدم و به تیم منتخب دانشگاهیان کل آمریکا که از سوی ESPN انتخاب می شود راه یافتم. افتخاری که فقط نصیب سیسه بازیکن در سرتاسر سر کشور می شود. در زمان فارغ و هم رکورد های 8 دسته مختلف دانشگاه را در اختیار داشتم. همان سال بالاترین افتخار آکادمی که دانشگاه یعنی مدال رئیس را دریافت کردم. امیدوارم اگر لحنم خود ستستاانه است مرا ببخشید. صادقانه بگویم حرفه ورزشی من هیچ نکته تاریخی یا افسان ندارد. هیچگاه بازیکن حرفه نشدم اما وقتی به آن سالها نگاه می کنم به این اعتقاد می رسم که توانستم به ارزشهای های کمیابی دست یابم. پتانسیل خودم را نشان دادم و اعتقاد دارم که مفاهیم این کتاب می توانند به شما کمک کنند پتانسیلتان را شکوفا کنید ما همگی با چالش های زندگی مواجه می شویم این مصدومیت هم چالش من بود و چون این تجربه ای درسی حیاتی به من داد تغییراتی که در ابتدا کوچک و نه چندان مهم به نظر می رسند در کنار یکدیگر به نتایج قابل توجهی ختم خواهند شد البته اگر سالها به آن پایبند بمانید، ما همگی در طولانی مدت با موانعی مواجه می شویم. اما کیفیت زندگی من غالباً به کیفیت آدتهای من بستگی دارد. با همان آدتها در نهایت به همان نتایج قبلی دست خواهید یافت. اگر آدتهایتان را بهتر کنید، هر چیزی ممکن می شود. شاید افرادی باشند که بتوانند یک شبه به موفقیت‌های خارق العاده‌ای دست یابند چون این فردی را شخصا شناسم و خودم هم قطعاً در این دسته قرار نمی‌گیرم در گذارم از کمای امدی پزشکی به سمت حضور در تیم منتخب دانشگاهیان یک لحظه تعیین کننده مشخص وجود نداشت لحظات زیادی بودند این یک تحول تدریجی بود ریشته طولانی از پیروزی‌های کوچک و پیشرفت‌های جزئی تنها راهی که از طریق آن پیشرفت کردم تنها انتخابی که داشتم شروع کوچک بود همین استراتژی را چند سال بعد در زمان شروع کسب و کارم برگزیدم و کارم را روی این کتاب شروع کردم چگونه و چرا این کتاب را نوشتم در نوامبر سال 2019 شروع به انتشار مقالاتی در jamesclear.com کردم. سالها بود که تجربیات شخصیم را با عادات مختلف مکتوب می کردم و در نهایت آماده شدم برخی از آنها را به صورت عمومی به اشتراک بگذارم. کارم را با انتشار یک مقاله جدید هر دوشنبه و پنجشنبه آغاز کردم. تیه چند ماه همین عادت ساده نگارش باعث شد هزار مشترک خبرنامه ایمیلی داشته باشم و در انتهای سال 2013 این رقم به بیش از سی هزار نفر رسید. در سال 2014 فهرست ایمیل من به بیش از ست هزار مشترک توسعه یافت که بدین ترتیب به یکی از پرسرعت ترین رشدها در میان خبرنامه های اینترنتی تبدیل شد. زمانی که نوشتن را آغاز کردم حس یک دقلکار و متظاهر را داشتم. اما اکنون من را به عنوان یک متخصص عادتها میشناسند. عنوان جدیدی که هیجان زده میکند و البته مقداری هم حس ملال به همراه دارد. هیچگاه خودم را یک استاد در این موضوع ندیدم، بلکه صرفا کسی بودم که کنار مخاطبانم تجربه اندوختم. در سال 2015 به دویست هزار مشترک ایمیل رو رسیدم. و قراردادی با پنگوان رندوم هاوس بستم تا شروع به نگارش کتابی کنم که همکنون در دستانتان است با افزایش تعداد مخاطبانم های کسب و کارم افزایش یافت بیش از پیش از من میخواستند در کمپانیهای برتر درباره علم شکلدهی به عادت، تغییر رفتار و بهبود مداوم سخنرانی کنم در شرایطی قرار گرفتم که سخنرانیهای اصلی را در کنفرانس‌های آمریکا و اروپا ارائه می‌کردم. در سال 2016، مقالاتم به صورت منظم در نشریه‌های مهم نظیر تایم، اینترپرنور و فوربز ظاهر می‌شدند. عالی بود، زیرا بیش از هشت میلیون نفر در آن سال نوشته‌هایم را خواندند. مربیان لیگ ملی فوتبال، لیگ ملی بسکتبال و لیگ برتر بیسبال شروع به مطالعه کارهایم و اشتراک آن با سایر تیمها کردند. در شروع سال 2017، آکادمی عادتها را اندازی کردم که به پلتفرم برتر آموزشی برای سازمانها و افراد علاقمند به بهبود های کاری و زندگیشان تبدیل شد. شرکت هایی از لیست 500 کمپانی برتر فورچون، و تاپ های در حال رشد شروع به ثبت نام مدیران و آموزش پرسنلشان کردند در مجموع بیش از ده هزار رهبر مدیر مربی و معلم از آکادمی عادتها فارغ و تحصیل شدند و همکاریم هم با آنها باعث شد چیزهای زیادی را درباره کاربرد عادتها در دنیای واقعی متوجه شوندم وقتی در سال 2018 اصلاحات نهایی را روی این کتاب انجام دادم، JamesClear.com میلیون ها بازدید کننده در هر ماه داشت و تقریباً 500 هزار نفر در خبرنامه ایمیلی نام کرده بودند. آماری که در ابتدای کار و وقتی به این موضوع فکر می کردم، اصلا انتظارش را نداشتم. این کتاب چگونه به شما کمک خواهد کرد؟ ناوال راویکانت که کارآفرین و سرمایه است گفت: برای نوشتن یک کتاب خوب، باید ابتدا به خود کتاب تبدیل شوید. اول، خودم درباره ایده‌های ذکر شده در اینجا یاد گرفتم، چون باید با آنها زندگی می‌کردم. باید به عادت‌های کوچک اتکا میکردم تا پس از مصومیت احیا می شدم. قدرت بیشتری در باشگاه میافتم عملکرد سطح بالایی در زمین مسابقه ارائه می دادم. نویسنده می شدم. یک کسب و کار موفق می ساختم و خیلی ساده به یک بزرگسال سالال مسئولیت پذیر تبدیل می شدم. کوچک به من کمک کردند پتانسیلم را بالفعل کنم، و از آنجایی که این کتاب را انتخاب کرده اید حدس میزنم که شما هم دنبال همین کار هستید در صفحات آتی برنامهای گام به گام را برای ایجاد عادتهای بهتر به اشتراک خواهم گذاشت نه برای چند روز و چند هفته بلکه برای یک عمر در حالی که علم از هر آنچه نوشتم پشتیبانی کند، این کتاب یک مقاله تحقیقاتی برای دانشگاه نیست دستورالعملی عملی اجرایی است وقتی به صورت علمی درباره چگونگی ایجاد و تغییر آداب‌های به یک روش قابل فهم و اجرا صحبت می‌کنم، با توصیه‌های عملی و خردمندانه مواجه خواهید شد. رشته‌هایی که از آنها کمک می‌گیرم، زیستشناسی، فلسفه، روانشناسی و غیره سال هاست که وجود دارد، آنچه به شما ارائه می‌دهم، ای از بهترین ایده‌های افراد هوشمند در سالیان گذشته. و متقاعد کننده ترین مکاشفه های اخیر دانشمندان است امیدوارم به کمک من بتوانید مهمترین ایده ها را بیابید و آنها را به شیوهی عملپذیر به یکدیگر متصل کنید هر نکته خردمندانه ای که در این صفحات آمده است باید به پای متخصصان پیش از من نوشته شود اما هر نکته احمقانه را به پای خطای من بگذارید ستون این کتاب مدل چهار مرحله ای من برای عادت هاست سرنخ تمایل پاسخگویی و پاداش و چهار قانون تغییر رفتار که این مراحل را تکامل می بخشند امکان دارد مخاطبانی که پیش زمینه روانشناسی دارند برخی از این اصطلاحات را در شرطی سازی عامل شنیده باشند که ابتدا با شرح تحریک پاسخ پاداش توسط اسکینر در دهی سی میلادی مطرح شد و اخیرا با عبارت سر نخ، روتین پاداش در کتاب قدرت عادت نوشته چارلز داهیگ محبوبیت یافته است. دانشمندان علوم رفتاری همچون اسکینر دریافتند که اگر پاداش یا تنبیه صحیح را ارائه کنید، می توانید افراد را تحریک کنید که به شیوهی معین عمل کنند، اما در حالی که مدل اسکینر به خوبی توضیح داد چگونه یک محرک بیرونی بر عادتهای ما تأثیر می‌گذارد نتوانست درباره تأثیرگذاری افکار، احساسات و باورهای ما بر رفتارمان توضیح بدهد در دهه‌های اخیر دانشمندان شروع به تعیین رابطه میان افکار، احساسات و رفتارمان کردند همچنین این تحقیق در این صفحات پوشش داده خواهد شد در کل چهار چوبی که پیشنهاد می‌دهم مدلی یکپارچه از علوم شناختی و رفتاری است و اعتقاد دارم یکی از اولین مدل‌های رفتار انسانی است که برای محاسبه دقیق تاثیر های بیرونی و احساسات درونی بر عادت‌هایمان ایجاد شده است در حالی که امکان دارد برخی از بخش‌ها تکراری و آشنا باشد اما مطمئنم جزئیات و کاربردهای چهار قانون تغییر رفتار روی کرد جدیدی را برای تفکر درباره عادت ارائه خواهد داد. رفتار انسان همواره در حال تغییر است. موقعیت به موقعیت لحظه به لحظه، ثانیه به ثانیه. اما این کتاب درباره چیزهایی است که تغییر نمی کند درباره اصول رفتار انسانی است اصول ماندگاری که می توانید هر سال به آن اتکا کنید. ایده هایی که می کسب و کارتان را پیرامونش بسازید، خانواده را حول آن شکل دهید و زندگی را پیش ببرید. هیچ راه واحدی برای ایجاد عادتهای بهتر وجود ندارد، اما این کتاب بهترین راه هایی که می شناسم را شرح می دهد. روی کردی که صرف نظر از نقطه شروع یا موردی که در تلاش برای تغییران هستید، موثر خواهد بود. هایی که پوشش هم برای هر کسی که به دنبال سیستمی گام به گام برای بهبوده است مفید خواهد بود چه اهدافتان متمرکز بر سلامتی پول بهرهوری و روابط باشند و چه مجموعه‌ای از اینها را شامل شوند تا زمانی که رفتار انسانی مطرح باشد این کتاب راهنمای شما خواهد بود سول پایه چرا تغییرات کوچک موجب تفاوت بزرگ می یک قدرت غافل گیر کننده عادت های اتمی یکی از روزهای سال 2003، سرنوشت بریتیش سایکلینگ عوض شد. این سازمان که نهاد حاکم بر سواری حرفه‌ای در بریتانیای کبیر است، دیو بریلز فورد را به عنوان مدیر جدید کرده خود استخدام کرد. در آن زمان، سواران حرفه‌ای در بریتانیای کبیر حدوداً 100 سال میان مایگی و متوسط بودند را تجربه کرده بودند. از سال 1908 آنها فقط یک مدال طلای المپیک را کسب کرده بودند و در بزرگترین مسابقه دوچرخه سواری دنیا تورد و فرانس عمل کرده بدتری هم داشتند. و 110 سال هیچ دوچرخ سوار بریتانیایی نتوانسته بود این مسابقه را ببرد. در واقع عملکرد کرده دو سواران انگلیسی آنقدر ناامید کننده بود که یکی از بزرگترین تولیدکنندگان دوچرخه در اروپا از فروش دوچرخه به این تیم امتناع کرد زیرا می ترسیدند که اگر سایر هرفی ببینند انگلیسی ها از تجهیزاتشان استفاده می کنند به فروششان لطمه بخورد. بریلزفورد استخدام شد تا بریتیش سایکلینگ را به مسیر جدیدی ببرد. آنچه او را از مربی پیشین جدا می کند، تأهد بیوقفش به یک استراتژیست که از آن تحت عنوان اجماع سودهای ای یاد می کند. این استراتژی به دنبال بهبود های و جزئی در کلیه کارهای محوله است. بریلس فورد می گوید، کلیت این اصل از جایی میآید آید که اگر هر آنچه را به راندن یک دوچرخه مربوط می شود، جدا کنید و سپس همانها را به میزان یک درصد بهبود ببخشید پس از سرهمبندی این اجزا به سود قابل توجهی دست خواهید یافت. بریلسفورد و مربیانش کار خود را با تغییرات کوچکی آغاز کردند که احتمالاً از یک تیم دوچرخه سواری هرفهی انتظار دارید. آنها زین دوچرخه ها را مجدددن تراحی کردند تا راحتتر شود و الکل روی چرخ ها مالیدند تا چسبندگی بهتری داشته باشد. آنها از دوچرخه سواران خواستند لباس مخصوصی بپوشند که با جریان الکتریسیته گرم می شود تا دمای عضلاتشان حین دوچرخه سواری ایدئال بمانند. همچنین از سنسورهای های بازخورد زیستی استفاده کنند تا واکنش هر ورزشکار به یک تمرین خصوص ثبت و ارزیابی شود. آنها لباس مختلفی را در تونل باد تست کردند، و از دوچرخه سواران کوهستانشان خواستند لباس دوچرخه سواری پیست بپوشند چون سبکترند و آیرودینامیک بهتری دارند. اما همینجا متوقف نشدند. بریلز فورد و تیمش به کار خود برای یافتن این بهبودهای یک درصدی در بخش غیر منتظره و نادیده گرفته شده ادامه دادند. آنها انواع مختلف جل ماساژ را آزمودند تا ببینند کدام یک ریکاوری سریعتری برای ازوله دارد. یک جراح استخدام کردند که بهترین روی کرد شستشوی دست را به هر دو چرخ سوار یاد بدهد تا احتمال سرماخوردگیشان کاهش یابد. متکا و تشکی را که باعث خواب بهتر دوچرخ سواران می مشخص کردند. حتی داخل کامیون حمل و نقل دوچرخه ها را رنگ سفید زدند تا بتوانند لکه های کوچک قبار روی دیواره را ببینند، زیرا همین گرد و غبار اندک می تواند بر عملکرد دوچرخه‌ای که به خوبی تنظیم شده است تاثیر بگذارد وقتی این نکات و سطها بهبود کوچک دیگر در کنار یکدیگر جمع شدند نتایج سریعتر از آنچه تصور میشد از راه رسیدند فقط پنج سال پس از قبول مسئولیت برلسفورد، تیم دوچرخ سواری انگلستان سلطان مسابقات دوچرخ سواری جاده و پیست در مسابقات المپیک 2008 پکن شد جایی که آنها شست درصد از مدالهای طلای موجود را از آن خود کردند چهار سال بعد وقتی المپیک به لندن آمد بریتانیاییها شرایط را بهتر کردند زیرا نه رکورد المپیک و هفت رکورد جهانی را ثبت کردند همون سال برادلی ویگینز به اولین دوچرخه سوار بریتانیایی تبدیل شد که تور دو فرانس را برد. سال بعد هم کریس فروم برنده مسابقه شد و به پیروزی خود در سال های 2015، 2016 و 2017 ادامه داد و باعث شد تیم بریتانیا پنج پیروزی تور دو فرانس را تیه 6 سال داشته باشد. در طول یک دوره ده ساله از 2007 تا 2017، دوچرخه سوارهای بریتانیایی 178 قهرمانی جهانی و 66 مدال المپیک و پاراولمپیک بردند و 5 پیروزی تور دو فرانس را به دست آوردند که اکثرا آن را موفق دوره در تاریخ دوچرخه سواری می داند. این اتفاق چگونه رخ داد؟ چگونه تیمی که پیشتر ورزشکاران متوسطی داشت با انجام تغییراتی که در نگاه اول کوچک به نظر می به قهرمان جهان تبدیل شد و تفاوت بزرگی را رقم زد چرا تجمع های کوچک منجر به نتایج قابل توجهی شد و چگونه می توانید این رویکرد را در زندگی خود تکرار کنید چرا عادت های کوچک موجب تفاوتی بزرگ می شوند پسیادگی میتوان درباره اهمیت یک لحظه تعیین کننده اغراق کرد یا ارزش بهبودهای کوچک و روزمره را دست کم گرفت غالبا خودمان را قانع می کنیم که موفقیت بزرگ به اقدام بزرگ نیاز دارد چه هدفمان کاهش وزن ساختن ساختمان نوشتن کتاب بردن یک مسابقه و چه دستیابی به هر هدف دیگری باشد روی خودمان فشار می آوریم تا تغییرات مثبت بسیار بزرگی را ایجاد کنیم و همگان درباره ما صحبت کنند. در این میان بهبود یک درصدی خیلی به چشم نمی آید. گاهی اوقات اصلا دیده نمی شود، اما می تواند معنای بیشتری به خصوص در طولانی مدت داشته باشد. تفاوتی که یک بهبود کوچک می تواند در گذر زمان ایجاد کند، قابل توجه است. از نظر ریاضی قضیه اینگونه است. اگر به مدت یک سال هر روز یک درصد بهتر شوید در انتهای کار سی و هفت برابر بهتر خواهید شد. برعکس، اگر هر روز از سال یک درصد بدتر شوید در نهایت به صفر نزدیک خواهید شد. آنچه به عنوان یک پیروزی کوچک یا گام جزئی رو به عقب پنداشته می شود، به صورت یک پیروزی یا شکست بسیار بزرگتر انباشته خواهد شد. یک درصد بهتر در هر روز یک درصد افت در هر روز از یک سال ضرب در 365 مساوی است با 99 صدم به توان 365 یک درصد رشد در هر روز از یک سال ضرب در 37.78 صدم مساوی است با 1.1 یک یک صدم به توان 365 عادت‌ها به معنای تجمع سود حاصل از بهبودهای شخصی هستند. به همان ترتیب که سود بالاتر به سرمایه‌گی بیشتر تعلق می‌گیرد و روی آن انباشته می می‌شود. عادات هایتان نیز در صورت تکرار چون این تأثیری خواهند داشت. اگر در بازه یک روزه به آنها نگاه کنید، شاید تفاوت چندانی ایجاد نکنند، اما تأثیری که در طول ماه‌ها و سال‌ها بر میگذارند گذارند می‌تواند بزرگ باشد. تنها با نگاه به دو، پنج یا شاید ده سال آینده است که ارزش آدتهای خوب و عواقب آدتهای بدمان آشکار می شود. درک ارزشهای این موضوع در زندگی روزمره می دشوار باشد. غالبا تغییرات کوچک را نادیده می گیریم چون در آن لحظه خیلی مهم به نظر نمی رسند. اگر همکنون مقدار اندکی پول ذخیره کنید در جا میلیونر نخواهید شد. اگر سه روز پشت سر هم به باشگاه بروید هنوز هم هیکل خوبی نخواهید داشت. اگر امشب به مدت یک ساعت ماندارین یا همون زبان چینی استاندارد بخوانید هنوز آن را یاد نگرفته اید. ما تغییرات کوچکی ایجاد می کنیم، اما نتایج آن هیچگاه به سرعت ظاهر نمی شوند. بنابراین، دوباره سراغ روتین های پیشینمان متاسفانه، گام تحولات آنقدر آرام است که باعث می شود متوجه عواقب به عادتهای بدتان هم نشوید. اگر امروز یک وعده غذای ناسالم بخورید وزنتان روی تراز و تغییر چندانی نخواهد کرد. اگر امشب تا دیروقت کار کنید و خانواده را نادیده بگیرید، آنها شما را می بخشند. اگر وقت خود را هدر دهید و پروژه‌تان را تا فردا عقب بیندازید، معمولا وقت برای تکمیل آن خواهید داشت. به سادگی میتوان یک تصمیم را اتخاذ نکرد، اما وقتی خطاهای یک درصدی را هر روز تکرار میکنیم، تصمیمات زعیف من ادامه می‌یابد. اشتباهات کوچک مجددن انجام میشوند و با بهانه‌های کوچک به توجیه کارمان می‌پردازیم. میپردازیم. انتخاب های کوچک ما به نتایج نادرستی ختم خواهند شد. همین تجمع گام نادرست یا افت های یک درصدی این سو و آنسوست که در نهایت به یک مشکل ختم می تأثیری که به واسطه تغییر در عاداتتان ایجاد می شود، با تأثیر تغییر مسیر هواپیما فقط به اندازه چند درجه برابری می کند. فرض کنید در حال پرواز از لس آنجلس به نیویورک سیتی هستید. اگر خلبان نوک هواپیما را فقط سه و نیم درجه به سمت جنوب بگیرد به جای نیویورک در واشنگتن فرود خواهید آمد. این تغییر کوچک در زمان بلند شدن هواپیما به ندرت حس می شود. دماغی هواپیما فقط چند متر جابجا جا می شود اما وقتی همین تاثیر در سرتاسر آمریکا بزرگ نمایی می مایل آن طرفته فرود خواهید آمد. به همین ترتیب، یک تغییر کوچک در عادات روزانه شما می تواند زندگیتان را به یک مقصد متفاوت ببرد. انتخابی که یک درصد بهتر یا بدتر از وضعیت کنونی است، شاید در آن لحظه چندان جلب نظر نکند، اما در گذر زمان می تواند تغییر بزرگی را بین شرایط کنونی و آینده شما به وجود آورد. موفقیت محصول عادات روزانه شماست، نه تحولاتی که یک بار رخ می دهند. با این اوصاف مهم نیست که همکنون چقدر موفق یا ناموفق هستید. آنچه اهمیت دارد عاداتتان است که آیا شما را در مسیر موفقیت قرار میدهند یا خیر؟ باید بیشتر از اینکه نگران نتایج کنونیتان باشید ذهنتان را به مسیر فعلیتان معطوف کنید. اگر یک میلیونر هستید، اما بیش از درآمد مهانه خود خرج می پس در مسیر بدی قرار دارید. اگر عادات هزینه کردنتان تغییر نکند، عاقبت خوشی نخواهید داشت. برعکس، اگر ورشکسته هستید، اما هر روز مقدار اندکی پس انداز می کنید، بنابراین در حال طی مسیر به سمت آزادی مالی هستید. حتی اگر آرامتر از سرعت مد نظرتان حرکت کنید. نتایج شما در آینده حاصل آدتهای فعلیتان هستند. ارزش خالص شما در آینده از عادات مالی شما به دست می آید. وزنتان در آینده به واسطه عادات غذاییتان تعیین می شود. دانشتان در آینده از عادات یادگیریتان نشأت می گیرد. میزان در هم ریختگی خانه شما در آینده محصولی از عادات تمیزکاریتان است. آنچه تکرار کنید آیدتان می شود. اگر دوست دارید عاقبت زندگی خود را پیش بینی کنید، تنها کاری که باید انجام دهید پیروی از مسیر اواید یا ضررهای کوچکتان است و ببینید که چگونه انتخاب های روزمره در طول ده یا دوازده سال آینده کنار هم جمع می شوند. آیا میزان مخارجتان کمتر از درآمد ماهانه است؟ آیا هر هفته به باشگاه می روید؟ آیا کتاب می یا هر روز چیز جدیدی را تماشا می کنید؟ تلاش های کوچک اینچنینی هستند که آینده شما را تعریف می کنند. زمان است که مرز میان موفقیت و شکست را بزرگ نمایی می کند. زمان هر آنچه را که به آن بدهید چند برابر می کند. عادت های خوب کاری می کنند زمان متحد شما شود، اما با عادت های بد زمان دشمن شما خواهد شد عادت ها یک شمشیر دولبه هستند عادت های بد شما را دونیم می کنند و به همان سادگی عادت های خوب نقش سازنده دارند و به همین دلیل درک جزئیات اهمیت دارد باید بدانید که عادت ها چگونه کار می کنند و چگونه آنها را مطابق میلتان تراحی کنید تا بتوانید از آن نیمه خطرناک شمشیر در امان بمانید عادت‌های شما می‌توانند به نفع یا ضررتان ترکیب شوند. ترکیب‌های مثبت. ترکیب بهره‌وری. اجرای یک وظیفه بیشتر گام کوچکی برای یک روز است اما در سرتاسر حرفه شما نقش بزرگی ایفا می‌کند. تأثیر خودکارسازی یک وظیفه قدیمی یا یادگیری یک مهارت جدید می‌تواند بیشتر هم باشد هرقدر بتوانید وظایف بیشتری را به صورت روان و بدون تفکر اضافی انجام دهید مغزتان آزادی بیشتری برای تمرکز بر نواحی دیگر خواهد داشت ترکیب دانش یادگیری یک ایده جدید شما را به یک نابغه تبدیل نخواهد کرد اما تعهد به یادگیری در سرتاسر سر طول عمر میتواند تحولزا باشد. همچنین هر کتابی که میخوانید نه تنها مسئله جدیدی را به شما میآموزد بلکه مسیرهای متفاوتی از تفکر را درباره ایده های قدیمی میگوشاید. همانطور که وارن بافت گفت نحوه عملکرد دانش همینگونه است همانند سود سرمایه‌گذاری انباشته می‌شود ترکیب روابط افراد رفتار خودتان را به شما منعکس می‌کنند هر هرقدر بیشتر به دیگران کمک کنید دیگران هم تمایل بیشتری برای کمک به شما دارند اندکی مهربانی بیشتر در هر تعاملی می تواند به شبکه از ارتباطات وسیع و گسترده در گذر زمان منجر شود ترکیب منفی ترکیب استرس درماندگی از ترافیک، بار مسئولیت های فرزند پروری، نگرانی از عدم برآورد سازی تعهدات، تنش ناشی از فشار خونندکی بالا این عوامل شایع برای استرس همگی به تنهایی قابل مدیریتند اما وقتی سالها باقی میمانند همین استرس های کوچک به مشکلات جدی برای سلامتی ختم می شوند. ترکیب افکار منفی هر هرقدر دیگران را بیشتر بی ارزش احمق یا زشت بدانید، زندگی خود را بیشتر در معرض چنین تفاسیری قرار می‌دهید در یک چرخه فکری گرفتار می‌شوید همین موضوع درباره نحوه تفکرتان نسبت به دیگران صدق می‌کند اگر عادت کنید که افراد عصبانی، ناعادل یا خودخواه را در اطرافتان ببینید آنها همه جا با شما خواهند بود ترکیب خشونت آشوب، اعتراض و جنبش‌های بزرگ به ندرت به واسطه فقط یک رخداد به وجود می آیند. در عوض، مجموعه‌ای طولانی از خرد تهاجمات و نکات منفی روزمره هستند که به تدریج تکثیر می شوند تا حد تحمل تمام می شود و آشوب همچون آتش زبانه می‌کشد. پیشرفت واقعی چه شمایلی دارد؟ فرض کنید یک قالب یخ روی میز جلوی شما قرار دارد. اتاق سرد است و میتوانید بخار نفس خود را ببینید. همکنون دما منفی چهار درجه است. خیلی آرام اتاق شروع به گرم شدن می کند. منفی سه درجه. منفی دو. قالب یخ هنوز روی میز جلوی شماست. منفی یک درجه. سفر. هنوز اتفاقی نیفتاده است. یک درجه یخ شروع به زوب شدن می کند. تغییری یک درجه ای که با افزایش دماهای پیشین هیچ تفاوتی نمی کند، تغییری بزرگ ایجاد کرده است. لحظات دستیابی به موفقیت غالبا نتیجه اقدامات سابقی هستند که پتانسیل لازم برای آزادسازی یک تغییر بزرگ را ایجاد می کنند. این الگو همه جا مشاهده می شود. سرطان در هشتاد درصد از عمر خودش مخفی باقی می ماند. سپس در طول چند ماه بر بدن غلبه می کند. را به ندرت می توان تیه پنج سال اول عمرش مشاهده کرد. زیرا در این دوران در حال ایجاد سیستم ریشه غنی خود در زیر زمین است و سپس طی شش هفته به اندازه 27 متر قد می‌کشد و سر به آسمان میساید. به همین ترتیب، عادت‌ها غالباً هیچ تفاوتی ایجاد نمی‌کنند تا اینکه از یک حد مرزی عبور کنیم و سطح جدیدی از عملکرد گشوده شود. در مراحل اولیه و میانی هر اقدامی غالباً در های ناامیدی وجود دارند. انتظار دارید، پیشرفتتان به صورت خطی باشد و وقتی میبینید تلاش‌هایتان سمره خود را در چند روز، هفته یا ماه اول نشان نمیدهند، ناامید میشوید. حس میکنید، قرار نیست به جای خاصی برسید. این نشانه ای از هر گونه پروسه ترکیب شدن است. قدرتمندترین نتایج با تخیر ظاهر میشوند. این یکی از دلایل اصلی دشواری‌های ایجاد عادتهای ماندگار است. افراد تغییرات کوچکی ایجاد می کنند، نمی توانند نتیجه محسوس را ببینند و تصمیم به توقف آن می گیرند. با خود فکر می کنند، من این ماه هر روز دویدم، پس چرا هیچ تغییری در بدنم نمی بینم؟ وقتی چون این تفکر غالب شود، خیلی راحت آدتهای خوب را کنار می گذارید. اما به منظور ایجاد تفاوتهای معنادار، عادات باید به اندازه کافی باورجا بمانند تا قله فتح شود که آن را قله پتانسیل پنهان می نامم. اگر برای ایجاد یک عادت خوب یا شکستن یک عادت بد به سختی تقلا میکنید بدین معنا نیست که توانایی بهبود را از دست داده اید غالبا به این خاطر است که هنوز قله پتانسیل پنهان را فتح نکرده اید هللند درباره عدم دستیابی به موفقیت صرف نظر از سختکوشی مثل این میماند که بگویید چرا یخ زوب نمی شود؟ در حالی که دما بین منفی چهار تا صفر درجه است. تلاش شما تلف نمی شود چون در حال ذخیره شدن است. همه رخدادها در دمای یک درجه اتفاق میفتند. وقتی بالاخره قلعه پتانسیل پنهان را فتح کردید، افراد آن را یک موفقیت یک شبه خواهند نامید. دنیای بیرون تنها رخداد نهایی را خواهد دید و کاری با مسیر پیموده شده ندارد. اما خودتان میدانید این این کاریست که خیلی پیشتر شروع کرده اید، وقتی که به نظر می خیلی پیشرفت نمی کنید و پرش امروزتان را ممکن کرده است، میتوان آن را معادلی انسانی برای فشار زمین شناسی دانست. دو صفحه تکتونیک میتوانند توانند سال کناری یکدیگر ساییده شوند و تنش به تدریج در گذر زمان شکل میگیرد. در ادامه یک روز میرسد که بار دیگر به همان شکل همیشگی به هم ساییده میشوند. اما این بار تنش خیلی بزرگ است و یک زلزله فوران میکند. تغییر میتواند سالها طول بکشد، پیش از اینکه یک بار رخ دهد کسب مهارت به صبوری نیاز دارد سان آنتونیو اسپیرز یکی از موفق ترین تیم تاریخ ان ای یکی از نقل قول های جیکوب ریس اصلاح طلب سابق را در کومود های بازیکنان نصب کرده است وقتی فکر می کنم هیچ چیز به من کمک نمی کند میروم و به سنگ تراشی نگاه میکنم که پتک را روی سنگ فرود می آورد شاید صد بار ضربه بزند بدون اینکه ترکی روی آن ظاهر شود با این حال با ضربه صد و یکم سنگ دونیم می شود و من می دانم که صرفاً آخرین ضربه کارساز نبوده است بلکه تمام ضربات پیشین هم تأثیر خود را گذاشتند همه نتایج بزرگ از شروعهای کوچک حاصل می شوند و هر عادتی یک تصمیم کوچک است اما وقتی این تصمیم تکرار شود، آن عادت جوانه میزند و قدرت میگیرد. ریشه ها خودشان را تقویت و شاخه ها رشد خواهند کرد. شکستن یک عادت بد مثل کند کردن یک بلوط قدرتمند و قدیمی درون خودمان است. ایجاد یک عادت خوب هم مثل این می ماند که هر روز از سال را به کاشت یک گل کوچک و ظریف بگذرانید. اما، چه چیزی استقامت ما به پای یک عادت را مشخص می‌کند تا قله پتانسیل پنهان را فتح کنیم و به آن سوی قله برسیم چه عاملی باعث می‌شود افراد به دام عادات ناخواسته بیفتند و گروه دیگری از اثرات انباشته شده عادات خوب در گذر زمان لذت ببرند غالبا انتظار داریم پیشرفت خطی باشد حتی اقل امیدواریم که زود از راه برسد در واقعیت نتایج تلاش ما اغلب با تخیر ظاهر می شوند. شاید ماه یا سال‌ها بگذرد تا ارزش واقعی کارهایی که پیشتر انجام داده را متوجه شویم. این شرایط می به دره ناامیدی ختم شود که در آن افراد پس از هفته ها یا ماه ها سخت کوشی بدون دریافت نتایج دلزده می شوند. اما این کار تلف نمی شود بلکه ذخیره خواهد شد. فقط آینده است که ارزش کامل کارهای فعلی را افشا می کند اهداف را فراموش کنید در عوض تمرکزتان روی سیستم باشد. توصیه های خردمندانه که رواج دارند و به عنوان بهترین راه برای دستیابی به خواسته هایمان در زندگی مطرح میشوند مثل رسیدن به تناسب اندام بهتر، ساخت یک کسب و کار موفق، آرامش بیشتر و نگرانی کمتر و یا صرف زمان بیشتر با دوستان و خانواده در گروه تعیین اهداف خاص و قابل حصول است. سال هاست که همین رو کرد به روش من برای پرورش عادت تبدیل شده است. هر کدام از آنها هدفی بود که باید برآورده می کردم. برای نمره هایی که در مدرسه می خواستم، برای وزنه هایی که دوست داشتم در باشگاه بلند کنم و برای اوایدی که خواهان حصول آنها در کسب و کار بودم، هدف گذاری می کردم. در تعدادی از آنها موفق شدم اما در بسیاری نیز شکست خوردم. در نهایت متوجه شدم که نتایج حاصل شده ارتباط چندان زیادی با اهداف تعیین شده ندارند، و تقریبا همه چیز به سیستمی بستگی دارد که از آن پیروی می‌کنم. تفاوت سیستم ها با اهداف چیست؟ تمایز میان آنها را اولین بار از اسکات آدامز انیماتور کمیک دیلبرت آموختم. اهداف به نتایجی مربوط می شوند که خواهان دستیابی به آنها هستید. اما سیستم ها همان پروسه‌هایی هستند که به این نتایج منجر می شوند. اگر، یک مربی هستید امکان دارد هدفتان پیروزی در یک مسابقه باشد اما سیستم شما همان روش به کارگیری بازیکنان، مدیریت دستیاران و اجرای تمرینات است. اگر یک کارآفرین هستید امکان دارد هدفتان ایجاد کسب کاری میلیون دلاری باشد. سیستم شما شامل نحوه آزمودن ایده های محصول، انتخاب کارکنان و اجرای کمپین های بازاریابی می شود. اگر موزیسیان هستید، امکان دارد هدفتان نواختن قطعه‌ای جدید باشد. سیستم شماست که به بازه اجرای تمرینات، نحوه تقسیم بندی و مواجهه با میزانهای دشوار و روش شما برای دریافت بازخورد از اساتید مربوط می شود. همکنون به یک سوال جالب برمی‌خوریم. اگر اهدافتان را کاملا نادیده بگیرید و فقط روی سیستم تمرکز کنید، آیا باز هم موفق خواهید شد؟ مثلا اگر مربی بسکتبال باشید و هدف خود را برای پیروزی در یک مسابقه نادیده بگیرید و فقط روی تمرینات روزمره تیمتان تمرکز کنید، آیا باز هم نتیجه خواهید گرفت؟ به نظرم می شود. هدف از هر ورزش به پایان رساندن مسابقه با بهترین امتیاز است. اما اگر کل مسابقه چشمتان به تابلوی امتیازات باشد، شرایط مسخره‌ای رقم خواهد خورد. تنها راه برای پیروزی واقعی بهبود هر روزه است. به گفته بیل والش که سه بار برنده سوپر بول شده است، امتیاز خودش می آید. همین موضوع برای حوزه های مختلف زندگی صدق می کند. اگر می‌خواهید نتایج بهتری بگیرید، پس تعیین اهداف را فراموش کنید، به جای آن روی سیستم تمرکز کنید. منظورم از این جمله چیست؟ آیا اهداف کاملا بیفایدند؟ البته که نه اهداف برای تعیین مسیر لازمند اما سیستم ها بهترین گزینه برای پیشرفت هستند. وقتی زمان زیادی را صرف تفکر درباره اهداف می کنید و وقت کافی برای طراحی سیستم هایتان نمیگذارید مشکلاتی ظاهر خواهند شد. مشکل شماره یک برنده ها و بازنده ها هدف یکسانی دارند. تعیین هدف از نوعی تمایل نادرست به بقا سرچشمه میگیرد روی افرادی تمرکز می کنیم که در انتها برنده می شوند. افرادی که بقا یافتند و با دیدگاهی نادرست تصور می کنیم که اهداف جا تلبانهشان باعث این موفقیت شده است. در حالی که بسیاری از انسانهای دیگر هم همین اهداف را داشتند اما نتوانستند به موفقیت برسند هر شرکت کننده المپیک دوست دارد مدال طلا ببرد هر کاندیدا دوست دارد انتخاب شود اگر افراد موفق و ناموفق دارای اهداف یکسانی هستند پس هدف نمی‌تواند عامل تمایز میان برنده و بازنده باشد صرفاً هدف فتح تورد فرانس نبود که باعث شد دو دوچرخ سواران بریتانیایی به صدر این رشته ورزشی برسند. می توان تصور کرد که سالیان قبل هم هدفشان پیروزی در این مسابقه بود، مانند هر تیم حرفه‌ای دیگر هدف همواره همین بوده است. اما فقط زمانی که یک سیستم با بهبودهای کوچک و مداوم را راه اندازی کردند توانستند به نتیجه متفاوتی دست بیابند. مشکل شما دو دستیابی به یک هدف فقط یک تغییر آنی است فرض کنید یک اتاق نامرتب دارید و برای تمیزکارییان هدف گذاری می کنید. اگر انرژی لازم برای منظم کردنش را جمع آوری کنید اتاق تمیزی خواهید داشت در حال حاضر اما اگر باز هم همون عادت شلوغکاری و بینظمی پیشین را حفظ کنید که بیشتر باعث نامرتب شدن اتاق شده بود خیلی زود دوباره اتاقتان مثل قبل خواهد شد و دوباره باید برای تمیز کردنش اراده کنید. دوباره به همان نتیجه پیشین می رسید چون هیچگاه سیستم عامل آن را عوض نکرده اید. شما یک سر نخ را برطرف کرده اید بدون اینکه عامل را حل و فصل کنید. رسیدن به هدف فقط برای همان لحظه زندگیتان را تغییر میدهد. این عامل برخلاف چیزی است که درباره بهبود میدانیم. با خودمون فکر می کنیم باید نتایج را تغییر دهیم اما این نتایج نیستند که مشکل سازند. چیزی که حقیقتا باید تغییر دهیم سیستم هایی هستند که این نتایج را می سازند. وقتی مشکلات را در سطح نتایج حل می کنید فقط به شکل موقت آنها را از بین میبرید. به منظور بهبود صحیح، باید مشکلات را در سطح سیستم ها حل کنید، ورودی ها و خروجی ها را اصلاح کنید و نتایج خودشان حل خواهند شد. مشکل شماره 3. اهداف جلوی رضایت شما را می گیرند. فرض زمنی که پشت هر هدف وجود دارد چنین است. وقتی به هدفم رسیدم خوشحال خواهم شد. مشکلی که طرز فکر متمرکز بر هدف دارد، این است که من رضایت خود را تا فتح نقطه عطف بعدی در شرایط تعلیق نگه می دارید. آنقدر در چنین دامی گرفتار شدم که حسابش از دستم در رفته است. سالها رضایت چیزی بود که قرار بود در آینده از آن لذت ببرم. به خودم قول میدادم وقتی 10 کیلوگرم عزل ساختم یا پس از اینکه کسب و کارم به لیست نیویورک تایمز راه یافت می توانم بالاخره با آرامش زندگی کنم. همچنین اهداف نوعی دوراهی یا این یا آن ایجاد می کنند. یا شما به هدفتان دست مییابید و موفق هستید یا شکست میخورید و موجب ناامیدی میشوید. از نظر ذهنی خود را در یک نسخه محدود و باریک از رضایت محدود میکنید. این اشتباه است: احتمالش کم است که مسیر واقعی شما در زندگی با آن مسیر دقیقی که در ذهنتان ترسیم کرده بودید همخانی داشته باشد. هیچ لزومی ندارد که رضایت خود را به یک سناریو محدود کنید در حالی که مسیرهای زیادی برای موفقیت وجود دارد. طرز فکر متمرکز بر سیستم نوعی پاتن فراهم می کند. وقتی به جای محصول و مقصد، عاشق پروسه و مسیر شوید لزومی ندارد منتظر کسب اجازه برای خوشحال شدن بمانید. می توانید هر بار که سیستمتان اجرا می شود راضی شوید و یک سیستم میتواند در فرمهای بسیار متفاوتی موفق شود. نه اینکه فقط یک چشمنداز داشته باشد مشکل شماره چهار، اهداف در تضاد با پیشرفت طولانی مدت هستند در نهایت، طرز فکر مبتنی بر هدف مثل یو, یو میماند. بسیاری از دونده ها برای ماها به سختی تلاش می کنند، اما به محض اینکه از خط پایان گذرند، دست از تمرین برمیدارند. دیگر مسابقه ای نیست که به آنها انگیزه بدهد. وقتی تمام سختگوشی ما روی یک هدف به خصوص متمرکز شود، پس از دستیابی به آن چه انگیزه دیگری برای ادامه خواهیم داشت به همین دلیل بسیاری از افراد پس از دستیابی به هدف دوباره به عادتهای قدیمیشان برمیگردند. هدف از تعیین اهداف پیروزی در بازی است اما هدف از ایجاد سیستم تداوم حضور در بازی است تفکری که حقیقتاً طولانی مدت باشد، کمتر به هدف فکر خواهد کرد. صرفاً قرار نیست به یک دستاورد مشخص برسید، بلکه باید چرخی از اصلاح و بهبود مداوم داشته باشید. در نهایت، این تعهد شما به پروسه است که پیشرفتتان را تعیین خواهد کرد. سیستمی از عادت‌های اتمی اگر با تغییر آدتهایتان مشکل دارید، مشکل خودتان نیستید. مشکل سیستم شماست. آدتهای بعد خودشان را تکرار می کنند. نه به این خاطر که خواهان تغییرشان نیستید، بلکه چون مسیر نادرستی را برای تغییر برگزیده اید. شما تا سطح اهدافتان صعود نخواهید کرد، بلکه تا سطح سیستمهایتان پایین خواهید آمد. تمرکز بر سیستم کلی به جای تمرکز بر یک هدف خاص، یکی از زمینه های در این کتاب است. همچنین یکی از معانی عمیق در پس واژه اتمی است. احتمالاً تا کنون متوجه شده اید که عادت اتمی به یک تغییر کوچک، سودی هاشیعی و بهبودی یک درصدی اشاره می کند. این عادتهای کوچک بخشی از یک سیستم بزرگترند. همانطور که اتم ها سنگ بناهای ملکول هستند، آدت اتمی نیز سنگ بناهای نتایج قابل توجه محسوب می شوند. همچون اتم های زندگی ما هستند، هر کدام یک واحد اساسی است که به بهبود کلی ما کمک می کند. در ابتدا این روتین های کوچک خیلی مهم به نظر نمی رسند، اما به زودی موجب تقویت یکدیگر می شوند و پیروزی های بزرگی را رقم می زنند که نسبت به هزینه سرمایه گذاری اولیه ایشان می آنها کوچک و قدرتمندند دقیقاً عبارت عادت های اتمی همین معنی را دارد یک روی کرد یا رویه منظم که نه فقط کوچک و سهل الوصول است بلکه منبع قدرت خارق العاده محسوب می شود. انصری از یک سیستم که موجه به رشد ترکیبی است. خلاصه فصل آدت ترکیبی از عواید بهبودهای درونی هستند، اینکه هر روز یک درصد بهتر شوید در طولانی مدت به رقم بزرگی منتج خواهد شد. عادتها یک شمشیر دولبند آنها می توانند به نفع یا ضرر شما عمل کنند و به همین دلیل شناسایی جزئیاتشان ضروری است. تغییرات کوچک غالبا تفاوت ظاهری چندانی ایجاد نمی کنند. تا زمانی که از مقداری مرزی عبور کنید، قدرتمندترین نتایج در هر پروسه تدریجی با تاخیر ظاهر می شود، باید صبور باشید، یک عادت اتمی عادتی کوچک است که در دل یک سیستم بزرگتر جا دارد، همونطور که اتم ها سنگ بنای سازنده ملکول ها هستند، عادت های اتمی نیز نتایج قابل توجهی را می سازند، اگر نتایج بهتری می تعیین اهداف را فراموش کنید، در عوض روی سیستمتان تمرکز کنید، شما تا سطح اهدافتان بالا نمی روید، بلکه تا سطح سیستمهایتان پایین میآیید. چگونه عادتهای شما موجب شکل دهی به هویتتان می و برعکس؟ چرا تکرار عادتهای بد اینقدر ساده است اما عادتهای خوب را به سختی تکرار می کمتر چیزی پیدا می شود که به اندازه بهبود عادتهای روزمره بر زندگی شما تأثیر بگذارد. با این حال، امکانش هست که سال بعد همین موقع به جای انجام کارهای بهتر به تکرار اقدامات کنونی بپردازید. غالباً حفظ عادتهای خوب به مدت بیش از چند روز دشوار به نظر میرسد. حتی اگر بسیار تلاش کنید و انگیزه زیادی داشته باشید. عادتهای نظیر ورزش، زن یا مدیتیشن، رویدادنگاری و آشپزی، برای یکی دو روز منطقی هستند و پس از آن عذاباور می شوند. اما وقتی عادتهایتان جا افتادند، انگار تا ابد با شما هستند، به خصوص آنهایی که ناخاسته اند. صرف نظر از نیات خوبی که داریم، شکستن عادات ناسالم، نظیر خوردن فست فود، تماشای بیش از حد تلویزیون، بخت کشی و استعمال دخانیات می تواند غیر به نظر برسد. تغییر عادت‌هایمان به دو دلیل چالش برانگیز است یک سعی می‌کنیم مورد اشتباهی را تغییر دهیم و دو سعی می‌کنیم عادت‌هایمان را به شیوه نادرست تغییر دهیم در این فصل به نکته اول می‌پردازیم در فصول بعدی به دومی پاسخ خواهم داد اولین اشتباه ما این است که سعی می‌کنیم مورد اشتباهی را تغییر دهیم برای اینکه منظورم را متوجه شوید در نظر داشته باشید سه سطح هستند که تغییر می در آنها رخ دهد می آنها را همچون لایه های پیاز فرض کنید سه لایه برای تغییر رفتار وجود دارد تغییر در خروجی ها تغییر در پروسه ها یا تغییر در هویتتان اولین لایه تغییر خروجی هایتان است این سطح به تغییر در نتایجتان ارتباط دارد. کاهش وزن، انتشار یک کتاب یا پیروزی در یک مسابقه اکثر اهدافی که تعیین می به این سطح از تغییر مربوط می دومین لایه تغییر پروسه هایتان است. این سطح به تغییر در عادات و سیستم هایتان ارتباط دارد. اجرای یک روتین جدید در باشگاه تمیز کردن میز کار، برای پیشبرد بهتر امور کاری، توسعه یک روی کرد برای مدیتیشن، اکثر عادتهایی که پرورش می دهید به این سطح مربوط می شوند. سومین و عمیق‌ترین لایه تغییر هویتتان است. این سطح به تغییر در باورهایتان مرتبط می شود. دیدگاهتان نسبت به جهان، خیشتن بینی، قضاوتهایتان در خود و دیگران، اکثر باورها، مفروزات و گرایش‌هایی که دارید به این سطح مربوط می شوند. نتایج آنچه هستند که دریافت می کنید. پروسه ها به آنچه انجام می دهید ربط دارند. چیزی است که بدان باور دارید. وقتی صحبت از ایجاد عادتهای ماندگار می شود، یعنی وقتی صحبت از ایجاد سیستمهایی برای بهبودهای یک درصدی می شود، مشکل این نیست که فیلان سطح از دیگری بهتر یا بدتر است. همه که تغییر به نوبه خودشان مفیدند. مشکل جهت تغییر است. بسیاری از افراد پروسه تغییر آدتهایشان را با تمرکز بر آنچه خواهان دستیابی به آن هستند آغاز میکنند. به این ترتیب به آدتهای مبتنی بر نتیجه میرسیم. میتوانید به جای آنها آدتهای مبتنی بر هویت ایجاد کنید. در این روی کرد، کار خود را با تمرکز روی شخصیتی که دوست دارید در آینده باشید، آغاز میکنید. در آدتهای مبتنی بر نتیجه، تمرکز ما روی چیزهایی قرار میگیرد که خواهان رسیدن به آن هستیم. در آدتهای مبتنی بر هویت بر شخصیتی که دوست داریم در آینده باشیم، تمرکز میکنیم فرض کنید دو نفر مقاومت می کنند تا سیگار نکشند. وقتی سیگار به آنها تعارف می شود، نفر اول میگوید نه ممنون در حال ترک هستم. این پاسخی معقول به نظر می رسد. اما این فرد کماکان باور دارد که سیگاریست و تلاش می کند به فرد دیگری تبدیل شود. آنها امیدوارند که با همراه داشتن همون باورهای قدیمی رفتارشان تغییر پیدا کند. دومین فرد با گفتن نه ممنون سیگاری نیستم درخواست سیگار را رد می کند. تفاوت کوچکی میان این دو جمله است. اما میتوان تغییر هویت را در پاسخ دوم مشاهده کرد. سیگار کشیدن به بخشی از زندگی پیشین آنها تبدیل شده است. نه زندگی که اکنون دارند. آنها دیگر خودشان را یک فرد سیگاری نمیدانند. اکثر افراد در جستجویشان برای بهبود حتی به تغییر هویت فکر هم نمی کنند. آنها صرفاً پیش خودشان می گویند می خواهم لاغر شوم. نتیجه و اگر به این رژیم مقید بمانم لاغر خواهم شد. پروسه هدف گذاری می کنند و اقداماتی که باید برای رسیدن به آن اهداف انجام دهند را در نظر می گیرند. بدون اینکه به باورهای محرک این اقدامات کاری داشته باشند. آنها هیچگاه نگاه به خودشان را تغییر نمی دهند و متوجه نمی شوند که هویت قدیمیشان می تواند برنامه های جدیدشان برای تغییر را خراب کند. پشت هر سیستمی از اقدامات سیستمی از باورها وجود دارد. سیستم دموکراسی بر اساس باورهای نظیر آزادی، رأی اکثریت و برابری اجتماعی بنا شده است. سیستم دیکتاتوری دارای مجموعه بسیار متفاوتی از باورها مانند قدرت مطلق و تبعیت سفت و سخت است. می توانید راه های مختلفی را برای راضی کردن مردم به منظور شرکت حد اکثری در انتخابات تصور کنید. اما چون این رفتاری هیچگاه در دیکتاتوری مطرح نخواهد شد زیرا در هویت آن سیستم جایی ندارد رایگیری رفتاری است که تحت برخی از مجموعه باورها امکانپذیر نیست وقتی درباره افراد سازمانها یا جوامع بحث میکنیم، الگوی مشابهی وجود دارد ای از باورها و مفروزات که سیستم و هویت پشت عادتها را شکل می دهند. رفتاری که همسو با شخصیت نباشد دوامی نخواهد داشت. شاید پول بیشتری بخواهید اما وقتی هویتتان به گونه است که بیش از ساخته هایتان مصرف می کنید پس باز هم به سمت مخارج بیش از درآمد خواهید رفت. شاید خواهان وضعیت بهتری برای سلامتی باشید اما اگر باز هم راحت طلبی را بر اقدام و دستاورد ترجیح دهید بیش از ورزش دنبال خوشگذرانی خواهید رفت اگر هیچگاه باورهای اساسی خود را که منجر به رفتار پیشینتان شده است تغییر ندهید به سختی قادر به تغییر عادت ها خواهید بود شما یک برنامه و هدف جدید دارید اما هنوز خودتان را تغییر ندادید. داستان برایان کلارک، کارآفرینی از بولدر کلرادو را در نظر بگیرید که نمونه خوبی است. کلارک به من گفت: از وقتی یادم می‌آید ناخونهایم را می جویدم. این کار به عنوان یک عادت عصبی و در سنین جوانی آغاز شد و سپس به یک سنت غیربهداشتی نامطلوب تبدیل شد. یک روز موفق شدم جویدن ناخونهایم را متوقف کنم تا اینکه مقداری رشد کردند. تنها با استفاده از قدرت ذهن توانستم این کار را انجام دهم. در ادامه کلارک یک کار قفلگیر کننده انجام داد. او گفت: از همسرم خواستم برای اولین بار در عمرم نوبت مانیکور برایم بگیرد. فکر کردم اگر برای حفظ ناخونهایم هزینه کنم دیگر آنها را نخواهم جوید و این موضوع جواب داد. البته ربطی به دلایل مالی نداشت. مانیکور کاری کرده بود که برای اولین بار ناخونهایم شمایل زیبایی پیدا کنند. حتی مانیکوریست به من گفت جدا از قضیه جویدن ناخونهای بسیار سالم و جذابی دارم، ناگهان به ناخونهایم افتخار کردم، اگرچه هیچگاه چنین اشتیاقی را تجربه نکرده بودم اما ناگهان شرایط متفاوت شد، دیگر از آن به بعد هیچگاه ناخونهایم را نجویدم، حتی یک بار هم به آن نزدیک نشدم، به همین دلیل همکنون با افتخار از آنها مراقبت می فرم کامل یک انگیزش درونی زمانی است که آن عادت به بخشی از هویت شما تبدیل شود وقتی میگویید من آدمی هستم که فلان چیز را میخواهم با زمانی که میگویید من آدمی با فلان شخصیت هستم فرق می کند هرقدر بیشتر به یک جنبه به خصوص از هویت خود افتخار کنید انگیزه بیشتری برای حفظ عادت‌های مربوط به آن خواهید داشت اگر به حالت و شمایل موی خود افتخار می کنید، انواع و اقسام عادتها را برای مراقبت و حفظ آن توسعه خواهید داد. اگر به اندازه ازوله های خود افتخار می کنید، کاری خواهید کرد که هیچگاه یک جلسه ورزش را از دست ندهید. اگر روسری هایی که گلدوزی می کنید مایه افتخارتان است، احتمالا در طول هفته ساعت بیشتری را به گلدوزی اختصاص خواهید داد. وقتی غرور و افتخار وارد کار شد با چنگ و دندان برای حفظ آن تلاش خواهید کرد تغییر واقعی در رفتار به معنای تغییر هویت است امکان دارد به خاطر فلان انگیزه یک عادت را شروع کنید اما فقط در صورتی به آن پایبند خواهید ماند که بخشی از هویتتان شود هر کس می تواند خودش را برای رفتن به باشگاه یا یکی دو بار خوردن غذای سالم متقاعد کند اما اگر باور پشت آن رفتار را تغییر ندهید به سختی خواهید توانست به آن پایبند بمانید بهبودها صرفا موقتی خواهند بود مگر اینکه به بخشی از هویت شما تبدیل شود هدف این نیست که یک کتاب بخوانید بلکه قرار است کتاب خان شوید هدف این نیست که در ماراتون شرکت کنید، بلکه قرار است دونده شوید. هدف این نیست که یک ساز یاد بگیرید، بلکه قرار است موزیسیان شوید. رفتارهای شما معمولاً باستابی از هویتتان هستند. آنچه انجام می دهید، بیانگر شخصیتی است که آگاهانه یا ناخودآگاه به آن باور دارید. تحقیقات نشان داده است وقتی شخصی به فلان جنبه خاص از هویتش علاقه دارد احتمال اینکه همسو با آن باور عمل کند افزایش خواهد یافت مثلا افرادی که خودشان را یک رای دهنده میشناسند، احتمالا بیش از افرادی که صرفاً خواهان رای دادن هستند در این پروسه شرکت خواهند کرد به همین ترتیب، فردی که ورزش را در هویت خود نهادینه کرده است، لزومی ندارد خودش را برای تمرین کردن قانع کند. انجام کار صحیح ساده است. در هر حال، وقتی رفتار و هویت شما کاملا همراستا شوند دیگر برای تغییر رفتار تلاش نمی کنید. شما صرفاً بر اساس شخصیتی که همکنون به آن باور دارید عمل می کنید. همانند سایر جنبه های مربوط به ایجاد یک عادت، این مورد نیز یک شمشیر دو است. وقتی همه چیز به نفعتان باشد، تغییر هویت می‌تواند محرکی قدرتمند برای بهبود شخصی باشد. اگرچه در صورتی که شرایط به ضررتان باشد، تغییر هویت به سختی صورت می‌گیرد. وقتی یک هویت را پذیرفتید به سادگی میتوان اجازه داد که وفاداریتان بر توانایی تغییر شما تاثیر بگذارد. بسیاری از افراد چشمانشان را میبندند و کورکورانه از هنجارهایی که به هویتشان زمیم شده است پیروی میکنند. من در جهتیابی افتضاحم نمیتوانم صبحها کار مفیدی انجام دهم. به سختی اسم افراد در خاطرم میماند. همیشه دیر میرسم میانم با تکنولوژی خوب نیست ریاضیاتم افتضاح هست و هزاران نسخه دیگر وقتی یک داستان را سالهای سال به خودتان تلقین میکنید این موضوع به راحتی در ذهنیت شما جا میگیرد و آن را به عنوان یک حقیقت میپذیرید زمان که بگذرد در برابر برخی اقدامات معین مقاومت میکنید چون میگویید من آدمش نیستم نوعی فشار درونی وجود دارد تا خیشتن بینی خود را حفظ و همسو با اعتقاداتتان عمل کنید. هر راهی که به را پیدا می کنید تا از مخالفت با خودتان بپرهیزید. هر قدر یک تفکر یا اقدام به شکلی تر در هویتتان تنیده شود، تغییر آن دشوارتر خواهد شد. می توانید به راحتی آنچه فرهنگتان به آن باور دارد را بپذیرید، که همان هویت گروهی نامیده می شود یا به فیشتن بینی خود پایبند بمانید که همان هویت شخصی نامیده می شود حتی اگر نادرست باشد بزرگترین مانع برای تغییر مثبت در هر سطحی فردی تیمی یا اجتماعی تضاد آن با هویت است عادت خوب می توانند منطقی به نظر برسند اما اگر با هویتتان در تضاد باشند نمی توانید آنها را اجرا کنید. امکان دارد در هر روز با عادتهایتان کلنجار بروید زیرا سرتان شلوغ است، خسته اید، غرق در اندیشه هستید یا صدها دلیل دیگر برای این کار می آورید. اما دلیل واقعی برای عدم پایبندی طولانی مدت شما به عادتها این است که خیشتن بینیتان در نقش مانع عمل می کند. به همین دلیل، نمیتوانید چندان به یک نسخه از هویتتان پایبند بمانید. پیشرفت به یادگیری زودایی نیاز دارد. برای اینکه به بهترین نسخه از خودتان تبدیل شوید، باید دائماً اعتقاداتتان را ویرایش و هویت خود را به روز رسانی کنید و توسعه دهید. پس به یک سؤال مهم میرسیم. اگر باورها و دیدگاه شما چنین نقش مهمی در رفتارتان دارند، از ابتدا چگونه در وجودتان شکل می‌گیرند هویت شما دقیقاً چگونه شکل می‌گیرد و چگونه می‌توانید بر جنبه‌های جدیدی از هویتتان تکید کنید که در خدمتتان باشد و به تدریج موانع پیش را از بین ببرد فرآسه‌ای دو مرحله‌ای برای تغییر هویت حوییت در قالب آدتهایتان ظاهر می شود. شما با باورهای از پیش تعیین شده زاده نمی شوید. هر باور از جمله باورهایی که به خودتان دارید آموخته می شود و از طریق تجربیات سیغل می خورد. به بیان دقیقتر، تر، ها تجسسمی از هویتتان هستند. وقتی هر روز تختتان را مرتب می کنید، هویت یک شخص منظم، وقتی هر روز مینویسید هویت یک شخص خلاق و وقتی هر روز تمرین میکنید هویت یک ورزشکار را تجلی می بخشید هرقدر یک رفتار را بیشتر تکرار کنید بیشتر هویت مربوط به آن را تقویت میکنید در واقع واژه هویت در زبان انگلیسی ابتدا از ترکیب دو واژه لاتین به معنای وجود و مکرر ساخته شده است عملاً هویتتان به معنای وجود مکرر شماست. اما فقط به این دلیل به هویت خود باور دارید که دلایلی برای اثباتش موجود است. اگر 20 سال است هر روز یک شنبه به کلیسا می می‌روید، به این خاطر است که مذهبی هستید. اگر هر شب یک ساعت زیست شناسی می‌خندید، به این خاطر است که اهل مطالعه اید. اگر حتی در روزهای برفی هم به باشگاه می روید، به این خاطر است که به تناسب اندام تعهد دارید. هر قدر دلایل بیشتری برای یک باور داشته باشید، سختتر از همیشه به آن اعتقاد میابید. در اکثر اوقات جوانی، خودم را یک نویسنده تصور نمی کردم. اگر از هر کدام از معلمان دبیرستان یا اساتید دانشگاه بپرسید به شما میگویند نهایتاً یک نویسنده متوسط بودم قطعاً برجسته نبودم وقتی حرفه نویسندگی ام را شروع کردم در چند سال اول هر روز دوشنبه و پنجشنبه یک مقاله جدید منتشر میکردم با رشد سرنخا هویت من نیز به عنوان یک نویسنده رشد کرد از طریق عادتهایم یک نویسنده شدم. البته عادتهای شما تنها اقداماتی نیستند که بر هویتتان تاثیر میگذارند. اما به دلیل اینکه زیاد رخ میدهند معمولا در دستگی مهمها قرار میگیرند. هر تجربه در زندگی باعث می شود قیشتن بینی خود را اصلاح کنید اما دلیل نمی شود که چون یک بار به توپ ضربه زده اید، خود را بازیکن فوتبال قلمداد داد کنید. یا در صورت طراحی سرسری یک تصویر خود را هنرمند بدانید اما وقتی این اقدامات را تکرار می کنید دلایل روی یکدیگر انباشته می شوند و خویشتن بینیتان عوض می شود. تاثیری که تجربیات یک باره بر شما میگذارند کم کم از بین خواهد رفت در حالی که تاثیر عادتها در گذر زمان تقویت می شود. منظورم این است که عمده پروسه شکلگیری هویت با توجه به عاداتتان صورت میگیرد. در این راستا پروسه شکلگیری آدتها را می توان پروسه که بر اساس آن به خود کنونیتان میرسید. این یک تکامل تدریجی است. این گونه نیست که بشکن بزنیم و تصمیم بگیریم به یک شخصیت کاملا جدید تبدیل شویم. اندک اندک روز به روز عادت به عادت تغییر می کنیم. دائما شخصیتمان تحت تاثیر خورد تحولات مداوم قرار می گیرد. هر عادت مانند یک پیشنهاد است. هی hey, شاید شخصیت من اینگونه است. اگر یک کتاب را تمام کنید بنابراین این احتمالا فردی هستید که مطالعه را دوست دارد. اگر به باشگاه بروید احتمالا فردی هستید که ورزش را دوست دارد. اگر نواختن گیتار را تمرین کنید، احتمالاً فردی هستید که موسیقی را میپسندد. هر اقدامی که انجام می‌دهید یک رأی برای تبدیل به شخصیتی است که دوست دارید. هیچ تک اقدامی موجب تحول باورهایتان نخواهد شد، اما وقتی همین رعی ها تک تک جمع می‌شوند، اسناد مربوط به هویت جدیدتان ساخته می‌شود. به همین دلیل میتوان گفت که تغییر معنادار و هدفمند نباید رادیکال باشد. عادتهای کوچک می میتوانند با فراهمسازی اسناد یک هویت جدید تفاوتهای معناداری را رقم بزنند. اگر تغییر معنادار باشد، بزرگ قلم داد میشود. این امر با ایجاد های کوچک که پیشتر ذکر شد، پارادوکس دارد. با جمعبندی مسائل، می توانید ببینید که عادتها مسیری برای تغییر هویت هستند. عملی راه برای تغییر شخصیتتان تغییر است که انجام می دهید. هر بار که یک صفحه می نویسید، یک نویسنده هستید. هر بار که ویولون تمرین می کنید، یک موزیسین هستید. هر بار که تمرین را شروع می کنید، یک ورزشکار هستید. هر بار که همکارانتان را تشویق می کنید، یک رهبر هستید. هر تغییر نه تنها نتیجه می دهد بلکه مسئله ای بسیار مهمتر را میآموزد به خودتان اعتماد کنید به این باور می رسید که واقعا می توانید این کارها را انجام دهید. وقتی همین رای ها جمع می شوند و اسناد شروع به تغییر می کنند، داستانی که به خودتان میگویید نیز شروع به تغییر خواهد کرد. البته به شیوه مکوس هم جواب می دهد. هر بار که اجرای یک عادت بد را انتخاب می کنید، یک رأی به نفع آن هویت است. خبر خوبی این است که لزومی ندارد کامل باشید. در هر انتخابی هر دو جناه رأی‌هایی دارند. برای پیروزی در انتخابات به رأی همه نیاز ندارید. فقط کافی است در اکثریت باشید. خیلی مهم نیست که چند رای هم به رفتار بد یا عادت غیر مفید بدهید. هدفتان این است که اکثریت را برنده شوید. هویت‌های جدید به اسناد جدید نیاز دارند. اگر همیشه همان رعی های پیشین را به صندوق بیاندازید، باز هم به همان نتایج همیشگی خواهید رسید. اگر رأی تغییر نکند، طبیعی است که تغییری مشاهده نخواهد شد. این یک پروسه دو مرحله ای و ساده است. یک، نوع شخصیتی که دوست دارید را انتخاب کنید. دو، با پیروزی های کوچک آن را به خودتان اثبات کنید. ابتدا شخصیتی که دوست دارید را انتخاب کنید. این امر در هر سطحی وجود دارد. در قالب فردی، یک تیم، جامعه یا ملت. دوست دارید پای چه چیزهایی بیستید. اصول و ارزشهای شما چه هستند. دوست دارید به چه شخصیتی تبدیل شوید اینها سوالات بزرگی هستند و بسیاری از افراد مطمئن نیستند که باید از کجا شروع کنند اما نوع نتایجی که میخواهند را میشناسند اینکه سیکس پک در بیاورند یا استرس کمتری داشته باشند یا حقوقشان دو برابر شود این خوب است کارتان را از نتایج آغاز کنید و ببینید که به چه نوع شخصیتی نیاز دارید تا بتوانید به این نتایج برسید. از خودتان بپرسید چه نوع شخصیتی هست که میتواند من را به نتیجه مد نظرم برساند؟ چه نوع شخصیتی میتواند 20 کیلوگرم وزن کم کند؟ چه نوع شخصیتی میتواند یک زبان جدید یاد بگیرد؟ چه نوع شخصیتی میتواند یک استارتاپ موفق را اجرا کند؟ مثلا چه نوع شخصیتی میتواند یک کتاب بنویسد؟ احتمالاً فردی است که ثابت قدم و قابل اعتماد باشد. همکنون تمرکز خود را به جای نوشتن یک کتاب به عبارتی نتیجه روی شخصیتی بگذارید که ثابت قدم و قابل اطمینان است. به عبارتی همان هویت. این پروسه میتواند به اعتقادات اینچنینی ختم شود. من از آن نو معلم ها هستم که پای محصل هایم میمانم من از آن دکتر هستم که برای هر مریض زمان می گذارم تا همدردی لازم را با آنها داشته باشم من از آن مدیرها هستم که از کارکنانش دفاع میکند وقتی روی شخصیت مد نظرتان کنترل پیدا کردید میتوانید گام های کوچکی را برای تقویت هویت مطلوبتان بردارید دوستی دارم که با پرسش یک فرد سالم چه کارهایی انجام می بیش از چهل و پنج وزن کم کرده است. در سرتاسر طول روز از این پرسش به عنوان یک دستورالعمل بهره می گیرد. آیا یک فرد سالم پیاده می رود یا تاکسی می گیرد؟ آیا یک فرد سالم بوریتو سفارش می یا سالاد؟ با خودش فکر کرد، اگر به مدت طولانی مانند یک فرد سالم عمل کند در نهایت به یک فرد سالم تبدیل خواهد شد حق با او بود مفهوم عادتهای مبتنی بر هویت اولین مقدمه ما برای یکی دیگر از زمینه‌های کلیدی این کتاب است حلقه‌های بازخورد عادتهای شما هویتتان را شکل می‌دهند و هویت شما نیز عادتهایتان را این یک خیابان دو طرفه است. شکلگیری کل عادتها در قالب یک حلقه بازخورد است. همان مفهومی که در فصل بعد عمیقا مورد بحث قرار خواهد گرفت. اما باید اجازه دهید که ارزش اصول و هویت شما این حلقه را کنترل کنند، نه نتایجتان تمرکزتان همواره باید روی رسیدن به شخصیت مدنظر باشد نه اینکه آن نتایج به خصوص را کسب کنید دلیل واقعی در زمینه اهمیت عادات. تغییر هویت نقش ستاره قطبی را برای تغییر عادت ایفا می کند. بخش‌های باقی‌مانده این کتاب دستورالعمل‌های گام به گامی را برای نحوه ایجاد عادتهای بهتر در شما، خانواده، گروه، سازمان و سایر بخش‌های مد نظرتان ارائه می‌کند. اما پرسش ما اینجاست: آیا در حال تبدیل شدن به آن شخصیتی هستید که مد نظرتان است؟ اولین گام چیستی یا چگونگی نیست. بلکه بحث روی ماهیت شخصیتی است. باید بدانید که میخواهید به چه کسی تبدیل شوید. در غیر این صورت جستجوی شما برای تغییر همچون قایقی بدون سکان است. به همین دلیل هم کارتان را از همان جا شروع می کنید. شما قدرت تغییر عادات مربوط خودتان را در اختیار دارید. هویتتان روی سنگ حک نشده است. در هر لحظه حق انتخاب دارید. می توانید هویتی را که همکنون مد نظرتان است انتخاب کنید و آن را با عادتهای منتخبتان تقویت کنید. بدین ترتیب می توانید به هدف امیقتر این کتاب و دلیل واقعی اهمیت عادتها دستیابید. ایجاد عادتهای بهتر بدین معنا معنی نیست که کل زندگیتان را با ترفندهای مفید اشغال کنید یا هر شب نخدندان بزنید. هر روز صبح دوش آب سرد بگیرید یا هر روز یک لباس یکسان بپوشید. بدین معنا نیست که به معیارهای موفقیت بیرونی همچون کسب درآمد بیشتر، کاهش وزن یا کاهش استرس دست یابید. عادتها می توانند به شما کمک کنند به تمام این موارد دست پیدا کنید، اما اساساً آنها به داشتن یک چیز مرتبط نمی‌شوند. بلکه قرار است با آنها به شخص دیگری تبدیل شوید در نهایت عادت شما اهمیت دارند زیرا کمک می‌کنند به آن شخصی که مد نظرتان است تبدیل شوید آنها مسیری هستند که از طریق آن عمیق ترین باورهای مربوط به خودتان را توسعه می‌دهید به معنای واقعی کلمه به عادت هایتان تبدیل می‌شوید خلاصه فصل سلای تغییر وجود دارد تغییر در خروجی تغییر در پروسه و تغییر در هویت موثرترین راه برای تغییر عادت ها این است که نه روی دستاورد های مد نظرتان بلکه بر شخصیتی که دوست دارید تمرکز کنید برای تبدیل به بهترین نسخه از خودتان باید دائما باورهایتان را ویرایش کرده و هویتتان را بروز کنید و گسترش دهید. دلیل اهمیت واقعی عادتها این نیست که به نتایج بهتری ختم می شود. اگرچه می این نقش را ایفا کنند، بلکه میتوانند باورهایی را که به خودتان دارید تغییر دهند. سه. چگونه با چهار گام ساده عادتهای بهتری بسازیم در سال 1898 روانشناسی به نام ادوارد سورندایک آزمایشی را انجام داد که مبنای شناخت ما از شکلگیری عادتها و قوانین هدایت کننده یا رفتارمان شد. سورندایک به مطالعه حیوانات علاقه بود و این کار را با مطالعه روی گربه ها آغاز کرد. او هر گربه را داخل دستگاهی به نام جعبه معمق گذاشت. این جعبه به گونه‌ای طراحی شده بود که گربه می توانست با یک حرکت ساده، نظیر کشیدن یک حلقه تناب، فشردن یک اهرم یا قدم گذاشتن روی یک پلتفرم از در بیرون بیاید. مثلا جعبه دارای اهرمی بود که وقتی آن را فشار میدادید، در کناری جعبه باز میشد. وقتی در باز میشد، گربه می توانست بیرون بپرد و به سمت کاسه غذا بدود. اکثر گربه ها خیلی زود پس از قرار گرفتن داخل جعبه قصد فرار داشتند. آنها دماغشان را به گوشه های جعبه می‌زدند، پنجه هایشان را روی روزنه ها می‌کشیدند و به اشیای لق چنگ می‌انداختند. پس از چند دقیقه بررسی، گربه ها موفق می‌شدند اهرم جادویی را فشار دهند، در باز می‌شد و می توانستند فرار کنند. سورندایک رفتار هر گربه راته آزمایش های فراوان رسد کرد. در ابتدا حیوانات به صورت تصادفی در پیرامون جعبه راه می رفتند. اما به محض اینکه اهرام فشرده و در باز می شد پروسه یادگیری هم شروع می شد. به تدریج هر گربه یاد گرفت که اقدام به فشردن اهرام را به پاداش فرار از جعبه و رسیدن به غذا ربط دهد. پس از 20 یا سی آزمایش این رفتار به یک پروسه خودکار، و عادت در آنها تبدیل شد و هر گربه می توانست در چند ثانیه این کار را انجام دهد مثلا سوندایک اشاره کرد یک گربه تیه آزمایش آزمایشهای پیاپی به این مقدار زمان نیاز داشت تا این کار را انجام دهد 160 ثانیه سی ثانیه 90 ثانیه هشت، 15 28 بیست و 22 11 پانزده بیست دوازده ده چهارده ده هشت هشت پنج ده هشت شش شش و هفت طی سه آزمایش اول گربه برای فرار به صورت متوسط به یکونیم دقیقه زمان نیاز داشت این عدد در سه آزمایش آخر شش ممیز سه دهم ده ثانیه بود با تمرین، گربه توانست خطاهای کمتری انجام دهد و اقداماتش را سریعتر و تر انجام دهد. به جای اینکه همان اشتباهات را تکرار کند، گربه کم کم یاد گرفت مستقیما سراغ راهکار برود. سورندایک با بهرهگیری از مطالعاتش توانست پروسه یادگیری را چنین توصیف کند: رفتارهایی که نتایج رضایت بخش دارند معمولا تکرار می شوند و آنهایی که عواقب نامطلوب تولید می کنند، کمتر تکرار خواهند شد. مطالعه او یک نقطه شروع عالی برای گفتگو درباره نحوه شکلگیری عادت در زندگی ماست. همچنین پاسخهایی را به پرسشهای اساسی نظیر این موارد فراهم می کند. عادتها چه هستند؟ و چرا مغز به خودش زحمت می دهد، آنها را ایجاد کند چرا مغزتان عادت می عادت رفتاری است که به تعداد دفعات کافی، تکرار و به یک پروسه خودکار تبدیل می شود؟ پروسه شکلگیری عادت با آزمون و خطا آغاز می شود. هر زمان که بر یک موقعیت جدید در زندگی خود غلبه کردید، مغز شما یک تصمیم می‌گیرد. چگونه به این موقعیت واکنش نشان دهم؟ اولین باری که به یک مشکل برمیخورید مطمئن نیستید آن را چگونه حل کنید. مانند گربه سورندایک، کارهای مختلف را امتحان می‌کنید تا ببینید کدام یک جواب می‌دهد. طی این دوره، فعالیت عصبی مغز بالاست. به دقت موقعیت را تحلیل می‌کنید و درباره نحوه عملکرد خود تصمیماتی آگاهانه می‌گیرید. کلی اطلاعات جدید دریافت کرده و سعی می‌کنید از آنها سر در بیاورید. مغز سخت مشغول یادگیری بهترین اقدامات ممکن می‌شود. گاهی اوقات همچون گربه‌ای که اهرام را می‌کشد، راه حل صحیح برخورد می‌کنید. مسترب هستید و کشف می کنید که هر زمان می دوید حس آرامش پیدا می کنید. یک روز کاری طولانی از نظر ذهنی خسته ایتان کرده است و متوجه میشوید بازی ویدیویی موجب آرامشتان می شود. در حال مکاشفه، مکاشفه و مکاشفه هستید تا اینکه بوم، پاداش از راه می رسد. پس از اینکه به یک پاداش غیر منتظره برخورد می کنید، دفعه بعد استراتژیتان عوض می شود. مغز بلافاصله سراغ رخدات هایی می رود که در نهایت به پاداش ختم شدند. یک دقیقه صبر کنید. حس خوبی داشت. پیش از این موفقیت چه کارهایی کرده بودم؟ این همان حلقه است که پشت همه رفتارهای انسانی قرار دارد. سعی شکست بخور، بیاموز یک چیز متفاوت را امتحان کن. با تمرین آن حرکات بیفایده کمرنگ و اقدامات مفید تقویت می شوند. این همان شکل گیری عادت است. هر زمان که مکررا با مشکلی برخورد می کنید، مغزتان اتوماتیکوار شروع به پروسه حل آن میکند. آدتهایتان فقط مجموعه ای از راهکارهای خودکار هستند که مشکلات و تنشهای مداوم شما را حل می همانطور که جیسون هرها، ها دانشمند علوم رفتاری می نویسد آدتها صرفاً راهکارهای قابل اعتماد برای مشکلاتی هستند که در محیط رخ می‌دهند. وقتی آدتها شکل گرفتند سطح فعالیت در مغزتان کاهش می آبد. یاد می‌گیرید. روی سرنخ هایی که موفقیت را پیش بینی می کنند تمرکز کنید و سایر موارد را کنار بگذارید وقتی در آینده یک موقعیت مشابه پدید آمد دقیقاً می دانید که باید دنبال چه چیزی بگردید دیگر نیاز نیست همه زوایای یک موقعیت را تحلیل کنید مغز پروسه آزمون و خطا را نادیده می گیرد و یک قانون ذهنی می سازد اگر فلان موقعیت پیش آمد بهمان کار را بکن هر زمان که موقعیت مناسب بود میتوانید به صورت خودکار از این سناریوهای شناختی پیروی کنید حالا هر زمان که استرس داشتید کرم دویدن به جانتان میافتد به محض اینکه از محل کار بیرون آمدید دسته کنسول بازی را برمیدارید. دارید. انتخابی که پیشتر باید تلاش میکردید تا به آن برسید همکنون به صورت خودکار می میدهد یک عادت شکل گرفته است. عادتها میان برهای ذهنی هستند که از روی تجربه آموخته اید. از یک منظر، عادت به معنای به خاطر آوردن گامهایی است که پیشتر برای حل همان مسئله طی کرده اید. هر زمان که شرایط مطابقت داشتند، میتوانید توانید این گام ها را از حافظه بیرون بکشید و به صورت خودکار آنها را برای موقعیت مشابه به کار بگیرید. دلیل اولیهی که مغز گذشته ها را به خاطر می آورد، پیشبینی بهتر راهکارهای مفید در آینده است. شکلگیری عادت بسیار مفید است، زیرا ذهن خداگاه، گلوگاه، یعنی تعیین کننده حد اکثر بازدهی مغز است و در هر زمان فقط می تواند روی یک مشکل تمرکز کند. در نتیجه، مغز شما همواره تلاش می کند تا توجهتان را به ضروری ترین وظایف جلب کند. ذهن خداگاه هر جا که ممکن باشد دوست دارد وظایف را به ناخداگاه تحمیل کند تا آنها را به شکل خودکار انجام دهد. این دقیقا همان اتفاقی است که در زمان شکلگیری عادت رخ می‌دهد. عادت بار شناختی را کاهش می دهند و ظرفیت ذهنی را آزاد می کنند تا بتوانید به وظایف دیگری توجه کنید. صرف نظر از بازدهی آدات برخی هنوز درباره عواید اواید ها تردید دارند. آنها چون این مواردی را مطرح می کنند. آیا عادتها زندگی را بیروح نمی کنند؟ دوست ندارم خودم را در سبک زندگی گرفتار کنم که از آن لذت نمی برم. آیا؟ این میزان از روتین و تکرار تراوت و غیر منتظر بودن زندگی را از بین نمیبرد به ندرت چون این پرسش هایی دوگانگی نادرستی ایجاد می کنند باعث می شوند بین ایجاد عادت و حفظ آزادی یکی را انتخاب کنید اما در واقعیت این دو یکدیگر را تکمیل می کنند عادت ها آزادی را محدود نمی کنند بلکه آن را می سازند در واقع، افرادی که عاداتشان را کنترل نمی‌کنند، غالباً همان هایی هستند که کمترین آزادی را دارند. بدون عادات مالی خوب، همواره برای پول کلنجار خواهید رفت. بدون عادات خوب برای سلامتی، انگار همیشه کمبود انرژی دارید. بدون عادات خوب برای آمختن، همواره از منحنی یادگیری عقب میمانید. اگر همواره مجبور می شوید، وظایف ساده تصمیم گیری کنید، مثل چه زمانی باید ورزش کنم، چه زمانی باید بنویسم، چه زمانی باید قبض پرداخت کنم، بنابراین وقت کمتری برای آزادی خواهید داشت. فقط با ساده سازی اصول است که می توانید فضای ذهنی لازم را برای تفکر آزاد و خلاقیت بسازید. برعکس، وقتی عاداتتان را تنظیم می کنید و اساس زندگی خود را تحت کنترل می گیرید، ذهنتان می تواند آزادانه روی چالش های جدید تمرکز کند و مجموعه مشکلات بعدی را تحت کنترل در آورد. ایجاد عادت در شرایط کنونی اجازه می دهد بتوانید کارهای بیشتری را در آینده انجام دهید. دانش مربوط به نحوه عمل عادت ها پروسه ایجاد عادت می تواند به چهار گام ساده تقسیم شود، سرنخ، تمایل، پاسخ و پاداش. تجزیه آن به این بخش های اساسی به ما کمک می کند که چیستی عادت، نحوه عملکرد آن و رویکردهای لازم برای بهبودش را درک کنیم. این الگوی چهار مرحله ای سنگ بنای هر عادت است و مغز شما هر بار همین مراحل را با همین ترتیب طی کند. یک سرنخ، نخ دو تمایل سه پاسخ چهار پاداش همه ی این چهار مرحله را به همین ترتیبی که ذکر می شود می‌کنند. سرنخ، سر نخ تمایل پاسخ و پاداش اولین مرحله سرنخ است سرنخ تلنگری به ذهن شما میزند که یک رفتار را آغاز می‌کند سرنخ به معنای مقداری اطلاعات است که پاداش نهایی را پیش بینی می‌کند اجداد ما به سرنخهایی که موقعیت پاداشهای بدوی همچون غذا آب و رابطه جنسی را نشان میدادند توجه میکردند. امروز عمده زمان خود را صرف یادگیری سرنخ‌های می‌کنیم که پاداش‌های ثانویه همچون پول و شهرت، قدرت و جایگاه، تمجید و تقدیر، عشق و دوستی یا حس رضایت شخصی را پیش‌بینی می‌کنند. البته این سرنخ‌ها می‌توانند به صورت غیرمستقیم و متواقباً موجب افزایش احتمال بقا و تولید مثل ما شوند. که انگیزه اساسی برای همه اقداماتمان است ذهن شما دائما در حال تحلیل محیط درونی و بیرونی است تا سرنخ پاداشهای احتمالی را بیابد از آنجایی که همین سرنخ ها اولین نشانه نزدیک شدن به پاداشند طبیعی است که به مرحله تمایل برسیم تمایل دومین مرحله است و نیروی انگیزشی پشتیبان عادت ها محسوب می شود اگر مقدار مشخصی از تمایل یا انگیزه وجود نداشته باشد یعنی بدون وسوسه تغییر هیچ دلیلی برای اقدام نداریم آنچه بدان تمایل دارید خود عادت نیست بلکه تغییری است که به وجود می آورد شما هوس نمی کنید سیگار بکشید بلکه هوس می کنید آن حس تسکین بعد از آن را تجربه کنید. انگیزه شما مسواک زدن دندانهایتان نیست بلکه دوست دارید حس تمیزی داشته باشید. هدفتان این نیست که صرفا تلویزیون را روشن کنید بلکه میخواهید سرگرم شوید. هر وسوسه ای به تمایل شما برای تغییر وضعیت درونیتان پیوند خورده است. این نکته مهمی است که بعدها با جزئیات بیشتری مورد بحث قرار خواهیم داد. تمایلها در افراد مختلف متفاوتند. از نظر تئوری هر خورد اطلاعاتی می تواند به یک تمایل دامن بزند، اما عملا افراد مختلف با سرنخهای متفاوتی تحریک می شوند. یک قمارباز با کشیدن اهرم ماشین اسلات است که جرقه در ذهنش زده می شود و موج شدیدی از تمایل به این کار وجودش را فرا میگیرد اما برای کسی که به ندرت قمار می کند سر و صدا و شکوه کازینو صرفا یک پارازیت ناچندان مهم است سرنخ تا زمانی که تفسیر نشوند بی معنی هستند افکار، احساسات و عواطف ناظر است که یک سر نخ را به تمایل و وسوسه تبدیل می سومین مرحله پاسخ است. پاسخ در واقع همان عادت یا روتین است که اجرا می کنید و به شکل یک تفکر یا اقدام است. امکان دارد این پاسخ به میزان تمایل و تحریک شما بستگی داشته باشد یا حتی استکاکی که همراه با آن رفتار وجود دارد. اگر یک اقدام به خصوص به تلاش جسمی یا ذهنی زیادی نیاز داشته باشد و همکنون تمایل ندارید این میزان تلاش کنید سرغ کار نخواهید رفت. همچنین پاسخ شما به تواناییتان نیز بستگی دارد. ساده به نظر میرسد اما یک عادت فقط زمانی رخ می دهد که توانایی انجامش را داشته باشید. اگر دوست دارید روی سبد بسکتبال اسلم دانک بزنید، یعنی توپ را دو دستی در سبد فرو ببرید، اما نمی آنقدر بپرید که به سبد برسید، پس شانسی برای این کار نخواهید داشت. نهایتا پاسخ شما به یک پاداش منجر می شود. پاداش ها هدف نهایی هر عادتی هستند. سرنخ به معنای اطلاع یافتن از این پاداش، تمایل به معنای خاست درونی شما نسبت به کسب آن، و پاسخ به معنای تلاش، برای کسب آن است. ما به دنبال پاداش هستیم چون یک ما را راضی می کنند و دو به ما می آموزند. اولین هدف از پاداش ها براورد سازی تمایلات است. بلی، پاداش ها اواید خودشان را دارند. آب و غذا انرژی مورد نیاز برای زنده ماندن را فراهم می کنند. ارتقای رتبه درآمد و احترام بیشتری به همراه دارد تناسب اندام موجب ارتقای سلامتی و مقبولیت در جامعه می شود اما یکی از اواید آنی تر پاداش این است که تمایل و وسوسه شما برای خوردن یا کسب جایگاه یا کسب تاییدیه را برآورده می کند پاداش ها حتی برای یک لحظه هم شده حس رضایت و رهایی شدن از آن وسوسه را ایجاد می کنند سانیان پاداشا به ما یاد می‌دهند کدام مجموع از اقدامات ارزش به ذهن سپردن و تکرار در آینده را دارند مغز شما پاداشیاب است با گذران عمر سیستم حواس دائما در حال رصد کردن اقداماتی است که مطالباتتان را برآورده می‌کنند و لذت بخش هستند حس لذت و ناامیدی بخشی از سازوکار بازخورد هستند که به مغزتان کمک می کنند بین اقدامات مفید و بیفایده تمایز قائل شود. پاداش ها هستند که حلقه بازخورد را می بندند و چرخه عادت را تکمیل می کنند. اگر یک رفتار در هر یک از این چهار مرحله نقص داشته باشد به یک عادت تبدیل نخواهد شد. سر نخ را حذف کنید. عادت هیچگاه شروع نخواهد شد تمایل را کاهش دهید آن انگیزه کافی برای اقدام ایجاد نخواهد شد رفتار را دشوار کنید دیگر قادر به انجام آن نخواهید بود اگر پاداش نتواند میل شما را ارضا کند دیگر دلیلی برای تکرار مجدد آن در آینده نخواهید داشت بدون این گام های اولیه یک رفتار رخ نخواهد داد بدون حضور هر چهار مورد، یک رفتار تکرار نخواهد شد. چهار مرحله عادت را می توان به بهترین شکل همچون یک حلقه بازخورد توصیف کرد. آنها چرخه بیپایانی را می سازند که در هر لحظه از زندگی جریان دارد. چرخه عادت دائما در حال رسد محیط، پیش بینی بعدی، آزمودن پاسخهای متفاوت و یادگیری از نتایج است. خلاصه اینکه سرنخ ما را تحریک می‌کند و همین تحریک عاملی برای اقدام است که در نهایت به پاداش ختم خواهد شد. همین پاداش است که تمایل را ارزا می کند و به سرنخ ارتباط داده می شود. این چهار گام در کنار یکدیگر یک حلقه بازخورد ذهنی را می سازند. سرنخ، تمایل پاسخ و پاداش سرنخ تمایل پاسخ پاداش که در نهایت اجازه ایجاد عادتهای خودکار را می‌دهند این چرخه را تحت عنوان چرخه عادت می‌شناسند پروسه چهار مرحله‌ای چیزی نیست که گاه و بیگاه رخ دهد بلکه یک حلقه بازخورد دائمی و بدون توقف است که دائمان در هر لحظه زندگی شما جریان دارد، حتی همین حالا. مغز دائما در حال رسد محیط، پیشبینی رخداد بعدی، تلاش برای یافتن پاسخهای مختلف و یادگیری از نتایج است. کل این پروسه در یک آن به پایان می رسد و ما بارها و بارها آن را تکرار می کنیم. بدون اینکه متوجه شویم همه چیز در لحظه قبل جا گرفته است. می توانیم این چهارگام را به دو فاز تقسیم کنیم: فاز مسئله و فاز راهکار. فاز مسئله شامل سرنخ و تمایل می شود و زمانی است که تشخیص می دهید فلان چیز باید تغییر کند. فاز راهکار شامل پاسخ و پاداش می شود و زمانی است که اقدام می کنید. و به تغییر مد نظرتان می رسید. فاز مسئله یک سر نخ دو تمایل فاز راهکار سه پاسخ چهار پاداش همه رفتارها با میل ما به حل مسئله هدایت می شوند. گاهی اوقات مسئله اینجاست که شما یک خوبی را شناسایی می کنید و می‌خواهید آن را کسب کنید. در سایر اوقات بحث روی دردیست که تجربه می‌کنید و میخواهید آن را تسکین دهید یا از آن رها شوید در هر دو صورت هدف از هر عادت این است که مسائل پیش رو را حل کنید در ادامه می‌توانید تعدادی نمونه از زندگی واقعی را بشنوید ورود به اتاق تاریک و حرکت به سمت کلید چراغ برق را تصور کنید شما همین عادت ساده را بارها انجام داده اید بدون اینکه بخواهید به آن فکر کنید. در کسری از ثانیه هر چهار مرحله چرخه را انجام می دهید. ضرورت این کار شما را به سمت اقدام بدون تفکر می برد. فاز مسئله یک سرنخ. نخ موبایلتان یک پیامک جدید دریافت می کند. دو تمایل دوست دارید محتوای این پیام را بدانید. فاز راهکار 3. پاسخ موبایل را برمی دارید و پیام را می خانید. 4. پاداش تمایل خود به خواندن آن پیام را برطرف می کنید. برداشتن موبایل به زنگ هشدار دریافت پیام جدید مرتبط می شود. فاز مسئله 1. سرنخ در حال پاسخگویی به یک ایمیل هستید. دو، تمایل. احساس استرس دارید. دوست دارید را تحت کنترل درآورید. فاز راهکار. سه، پاسخ. نخونهایتان را می جوید. چهار، پاداش. تمایلتان به کاهش استرس را ارضا می کنید. جویدن نخونها به پاسخگویی ایمیل ارتباط داده می شود. فاض مسئله. یک. سر نخ، بیدار میشوید دو. تمایل. میخواهید هوشیار شوید. فاز راهکار. 3. پاسخ. یک فنجان قهوه می نوشید. چهار. پاداش. تمایلتان به هوشیار شدن را برآورده می کنید. نوشیدن قهوه به بیدار شدن ارتباط داده می شود. فاض مسئله. یک، سرنخ، وقتی در خیابان کنار دفتر کارتان قدم میزنید، بوی دونات از داخل قنادی به مشامتان میخورد. دو، تمایل، حوث دونات می کنید. فاز راهکار، سه، پاسخ، یک دونات می خرید و آن را میخورید. چهار، پاداش، حوث خود برای خوردن یک دونات را برطرف می کنید. خریدن یک دونات به قدم زدن در خیابان کنار دفتر کارتان ارتباط داده می شود. مسئله یک سر نخ به یک مانع بزرگ در پروژه کاری برخورد می کنید. دو تمایل حس می کنید گیر کرده اید و دوست دارید از این درماندگی رها شوید. فاض راهکار سه پاسخ گوشیتان را بیرون می آورید و سری به شبکه های اجتماعی میزنید. چهار، پاداش. تمایل خود به آرام شدن را برآورده می کنید. بررسی شبکه های اجتماعی به حس توقف و درجازدن در محیط کار ارتباط داده می شود. فاز مسئله یک، سرنخ. وارد یک اتاق تاریک می شوید. دو، تمایل، دوست دارید محیط اطراف را ببینید. فاز راهکار، سه، پاسخ، کلید برق را میزنید. چهار، پاداش، تمایلتان به دیدن برطرف میشود. روشن کردن چراغ با قرار گرفتن در یک اتاق تاریک مرتبط میشود. تا زمان بزرگسالی به ندرت متوجه عادتهایی میشویم که در زندگی ما جریان دارند. اکثر ما هیچگاه به نکاتی نظیر اینکه هر روز صبح بنده همان کفش را میبندیم یا همان توستر را پس از هر بار استفاده از پریز بیرون میآوریم یا همواره پس از رسیدن به خانه لباسهای راحتی راحتیمان را می‌پوشیم توجه نمی کنیم. پس از دهها برنامه ریزی ذهن به صورت خودکار سراغ این الگوهای فکری و عملی می رویم. چهار قانون تغییر رفتار در فصول بعدی مجددا خواهیم دید که چگونه چهار مرحله سرنخ، تمایل، پاسخ و پاداش تقریبا بر تمام اقدامات روزمره ما تاثیر دارند اما ابتدا باید این چهار گام را به یک چهارچوب عملی تبدیل کنیم تا بتوانیم از آن برای طراحی عادتهای خوب و حذف عادت بد بهره بگیریم. این چهارچوب را تحت عنوان چهار قانون تغییر رفتار مینامم که یک مجموعه قانون ساده را برای ایجاد عادت خوب و شکستن عادت بد فراهم می می‌توانید هر قانون را همچون اهرامی بپندارید که بر رفتار انسانی تاثیر میگذارد، وقتی اهرممها در موقعیت صحیح باشند، ایجاد عادت‌های خوب به سادگی صورت می‌گیرد وقتی موقعیتشان صحیح نباشد این کار تقریباً غیر ممکن است چگونه یک عادت خوب بسازیم اولین قانون سرنخ آن را شفاف و آشکار کنید دومین قانون تمایل آن را جذاب کنید سومین قانون پاسخ آن را ساده کنید. چهارمین قانون پاداش آن را رضایت بخش کنید. می توانیم این قوانین را مکوس کنیم تا نحوه شکستن یک عادت بد را یاد بگیریم. چگونه یک عادت بد را از بین ببریم؟ اولین قانون سر نخ، آن را مخفی یا پنهان کنید. دومین قانون، تمایل، آن را لوس و غیر جذاب کنید. سومین قانون، پاسخ، آن را دشوار کنید. چهارمین قانون، پاداش، آن را عامل نارضایتی کنید. اگر ادعا کنم که این چهار قانون، یک چهارچوب جامع برای تغییر هر رفتار انسانی هستند، خیلی مسئولانه رفتار نکردم، اما فکر میکنم این ادعا خیلی هم از واقعیت دور نیست. همانطور که به زودی خواهید دید، چهار قانون تغییر رفتار تقریبا به تمام حوزه ها، از ورزش تا سیاست، از هنر تا پزشکی و از کمدی تا مدیریت اعمال می این قوانین میتوانند صرف نظر از چالشی که با آن مواجه هستید مورد استفاده قرار گیرند. هیچ نیازی نیست که استراتژی‌های های کاملا متفاوتی را برای هر عادت در نظر بگیرید. هر زمان که خواستید یک رفتار را تغییر دهید، میتوانید این سوالات را از خودتان بپرسید. یک، چگونه میتوانم آن را شفاف و آشکار کنم؟ 2. چگونه می توانم آن را جذاب کنم؟ سه، چگونه می توانم آن را ساده کنم؟ چهار، چگونه می توانم آن را رضایت بخش کنم؟ شاید تا کنون با خودتان فکر کرده اید چرا آن کاری را که در نظر دارم انجام نمی دهم؟ چرا وزن کم نمی کنم یا ترک نمی کنم یا برای بازنشستگی پسنداز نمی کنم؟ یا یک کسب و کار سانویه را شکل نمیدهم چرا میگویم فلان چیز مهم است اما هیچگاه برای آن زمان نمیگذارم پاسخ این سؤالات می تواند در میان این چهار قانون یافت شود. کلید ایجاد عادتهای خوب و شکستن عادتهای بد شناخت این قوانین اساسی و تطبیق آنها با ویژگی های خودتان است. اگر هر هدف با ذات انسان هماهنگ نباشد، محتوم به شکست خواهد بود. آدتهای شما بر اساس سیستمهای زندگیتان شکل می‌گیرند. در فصول پیش رو تک به تک درباره این قوانین بحث خواهیم کرد و نشان می دهیم چگونه می از آنها برای ساخت سیستمی بهره بگیرید که در آن آدتهای خوب به صورت طبیعی ظاهر شده و آدتهای بعد سربه نیست میشوند خلاصه فصل عادت رفتاری است که به اندازه کافی تکرار می شود و به شکل خودکار انجام میگیرد. هدف غایی عادتها حل مسائل زندگی با صرف کمترین انرژی و تلاش ممکن است. هر عادت می تواند به حلقه بازخوردی تجزیه شود که چهار مرحله را در خود دارد سرنخ، تمایل، پاسخ و پاداش چهار قانون تغییر رفتار یک سری قوانین ساده هستند که می توانیم از آنها برای ایجاد عادتهای بهتر بهره بگیریم آنها عبارتند از یک آن را شفاف و آشکار کنید دو آن را جذاب کنید سه آن را ساده کنید و چهار آن را رضایت بخش کنید را شفاف و آشکار کنید چهار مردی که خوب به نظر نمی رسید گری کلائن روانشناس یک بار داستان خانومی را برایم تعریف کرد که در یک دور همی خانوادگی حضور پیدا کرده بود او سالها عمر خود را صرف کار به عنوان یک بهیار کرده بود و به محض رسیدن به مهمانی نگاهی به پدرشوهرش انداخت و بسیار نگران شد او گفت شکل و شمایل فعلی شما خوب به نظر نمی رسد پدرشوهرش که حس می کرد حالش خیلی هم خوب است با شوخی جواب داد خب من هم شکل و قیافه تو را دوست ندارم او اصرار کرد نه همین حالا باید به بیمارستان بروید چند ساعت بعد آن مرد پس از معاینات تحت عمل جراحی قرار گرفت تا از مرگ نجات پیدا کند. معاینات نشان دادند که عروق اصلی او دارای گرفتگی هستند و در خطر فوری سکته قلبی قرار داشت. اگر عروس نبود، امکان داشت بمیرد. آن بهیار چه چیزی را دید؟ چگونه توانست حمله قلبی قریب الوقوعش را پیش بینی کند؟ وقتی عروق اصلی دوچاره گرفتگی میشوند، شوند، بدن روی خون رسانی به ارگانهای حیاتی تمرکز می کند و دیگر خیلی به موقعیتهای پیرامونی در نزدیکی سطح پوست توجه ندارد. در نتیجه، الگوی توضیح خون در صورت شما تغییر می کند. او که سالها با افراد دارای نارسایی قلبی کار کرده بود، ناخداگاه میتوانست این الگو را با چشم تشخیص دهد. او نمی توانست توضیح دهد که چه چیزی را در چهره پدر شوهرش دیده است، اما می دانست که یک جای کار ایراد دارد. داستانهای مشابهی هم در سایر رشتهها مشاهده می شوند. مثلا تحلیلگران ارتش از روی نقطه چشمک زن روی صفحه رادار، موشک دشمن و هواپیماهای های ناوگان خودشان را تشخیص می دهند. با اینکه هر دوی آنها سرعت مشابهی دارند در یک ارتفاع پرواز می کنند و تقریبا از هر نظر روی رادار یکسان به نظر می‌رسند. در طول جنگ خلیج نافسروان مایکل رایلی با دستور خود مبنی بر معدوم کردن یک موشک یک ناو کامل را نجات داد با اینکه روی رادار دقیقا شبیه به هواپیماهای همان ناوگان به نظر می‌رسید، او تصمیم صحیح را گرفت اما حتی افسرهای ارشد او هم نمی توانستند بگویند چطور این کار را انجام داده است. موزهدارها هم به این معروفند که میتوانند فرق میان یک اثر هنری اصیل و کاری که با مهارت جل شده است را تشخیص دهند. اگرچه نمی توانند تفاوت در جزئیات این دو کار را دقیقا توضیح دهند، رادیولوژیست های با تجربه می به اسکن مغز نگاه کنند و پیش از اینکه افراد غیر متخصص هر گونه مشکلی را متوجه شوند، محل توسعه سکته را معلوم کنند. حتی شنیدم برخی آرشگرها می توانند فقط با لمس مو تشخیص دهند که مشتریشان باردار است یا خیر. مغز انسان یک دستگاه پیش بینی است. مدام پیرامون شما را اسکن و اطلاعات دریافتی را تحلیل می کند هر وقت یک اتفاق را به صورت مکرر تجربه کردید مانند بهیاری که چهره بیمار حمله قلبی را می بیند، یا تحلیلگر ارتشی که موشک را روی صفحه رادار مشاهده می کند مغز شما مسائل مهم را متوجه می شود جزیات را مرتب می کند، سر مرتبط را مورد تأکید قرار می دهد و اطلاعات را برای استفاده در آینده دستبندی می کند. با تمرین کافی می توانید بدون تفکر خداگاه درباره موضوع سر مربوط به پیشبینی خروجی های معین را متوجه شوید. مغز شما به صورت خودکار درس های آمخته از دل تجربیات را رمزگذاری می کند. همواره نمی توانیم آنچه یاد میگیریم را توضیح دهیم اما یادگیری در سرتاسر سر طول مسیر رخ میدهد و قابلیت شما برای متوجه شدن سر نخهای مرتبط در یک موقعیت معلوم مبنای تک تک عادتهایتان است. قابلیتهایی را که مغز و جسممان توانند بدون تفکر انجام دهند دست کم میگیریم. شما به مویتان نمیگویید رشد کند به قلبتان نمیگویید پمپاژ کند تنفس را به ششها و گوارش را به معده خود یاداوری نمیکنید با این حال بدن شما همه این موارد را غالباً به صورت خودکار مدیریت میکند شما خیلی فراتر از خداگاهتان هستید گرسنگی را در نظر بگیرید چگونه متوجه میشوید که گرسنه لزومن نباید یک کلوچه را روی اوپن ببینید تا متوجه شوید که الان وقت غذا خوردن است. اشتها و گرسنگی به صورت ناخداگاه مدیریت می شوند. بدن حلقه های بازخورد مختلفی دارد که وقتی زمان خوردن مجدد فرامیرسد کم کم به شما هشدار می‌دهند و همین حلقه ها اتفاقات پیرامون و درون شما را رهگیری می کنند. این امر به خاطر هورمون ها و مواد شیمیایی است که داخل بدن جریان دارند ناگهان متوجه می شوید که گرسنه اید اگرچه کاملا مطمئن نیستید که از چه طریق چنین حسی را پیدا کرده اید این یکی از قافل گیر کننده ترین بینش ها درباره عادات ماست نباید لزوما از سرنخی که موجب شروع یک عادت می شود آگاه باشید می یک فرصت را شناسایی کنید و بدون اینکه توجه خداگاهتان را به آن اختصاص دهید اقدام کنید. اینجاست است که عادت مفید واقع می شوند. همین امر می تواند باعث ظهور جنبه منفی آنها هم بشود. وقتی عادتها شکل میگیرند اقدامات شما در ذهن، ناخداگاه و به صورت خودکار انجام میگیرند. پیش از اینکه متوجه شوید چه اتفاقی رخ می دهد به دام الگوهای کهنه خود گرفتار می شوید. شاید اگر کسی نگوید خودتان متوجه نشوید که هر بار موقع خندیدن دستتان را جلوی دهانتان می گیرید پیش از پرسش مذرت خواهی می کنید یا عادت دارید که جمله دیگران را تمام کنید و هر قدر بیشتر این الگوها را تکرار کنید احتمال اینکه اقدامات خود و دلیل انجامشان را زیر سوال ببرید کمتر می شود. یک بار از یکی از کارکنان فروشگاه شنیدم که به او دستور داده بودند پس از خالی شدن موجودی کارت هدیه ی مشتریان این کارت‌ها را با قیچی ببرد یک بار همین آدم کارت هدیه ی چند مشتری متوالی را خالی و سپس آنها را قیچی کرد نفر بعدی که داخل صف قرار داشت، کارت اعتباری واقعی خودش را برای تصویه حساب داد. او هم بدون اینکه سر بالا بیاورد و به چهره متحیر مشتری نگاه کند، به صورت خودکار قیچی را برداشت و کارت را دو نیم کرد. خانم دیگری که در تحقیقاتم با او برخورد کردم، معلم پیش دبستانی بود که شغلش را عوض کرده و سراغ یک کار شرکتی رفته بود. اگرچه چی همکنون با بزرگ سالها کار میکرد اما عادتهای قدیمی او گهگاه برمیگشتند و از همکاران میپرسید که آیا دستهایشان را پس از رفتن به دستشویی شستند همچنین داستان مردی را شنیدم که سالها به عنوان نگهبان پیشتابستی کار کرده بود و گاهی بیجهت فریاد میزد راه برو چون همین دستور را در صورت دویدن بچه ها صادر میکرد. در گذر زمان سرنخایی که جرقه عاداتمان را میزنند، آنقدر عادی می‌شوند که اساساً به چشم نمی‌آیند خوراکی‌های روی اوپن آشپزخانه کنترل تلویزیون نزدیک مبل گوشی داخل جیب واکنش‌های ما به این سرنخها آنقدر عمیق کدگذاری می‌شوند که انگار میل ما به اجرایشان از ناکجا آباد می‌آید به همین دلیل باید پروسه تغییر رفتار را با آگاهی آغاز کنیم. پیش از اینکه بتوانیم عادات موثری بسازیم باید عادات کنونی را مدیریت کنیم. این امر دشوارتر از آن است که به نظر می رسد. زیرا وقتی عادتی عمیقا در زندگی شما ریشه گرفت، عمدتا به صورت ناخود و خودکار صورت می گیرد. اگر یک عادت ناخداگاه صورت بگیرد، نمی توانید انتظار داشته باشید بهتر شود. همانطور که کارل یونگ روانشناس می گوید تا زمانی که ناخداگاه را خداگاه نکنید زندگی شما را هدایت خواهد کرد و اتفاقات رخ داده را سرنوشت قلمداد داد می کنید. کارت امتیازی عادت ها سیستم آهن ژاپن را یکی از بهترین ها در دنیا می دانند اگر تا کنون سوار یکی از ترنهای توکیو شده باشید متوجه می شوید که اپراتورها عادت های خاصی دارند وقتی هر اپراتور قطار را هدایت می کند به اشیای مختلفی اشاره می کند و دستورات گوناگونی می دهد وقتی قطار به سیگنال رسید اپراتور به آن اشاره می کند و می گوید سیگنال سبز است وقتی قطار وارد هر ایستگاه و از آن خارج می شود اپراتور به سرعت سنجش اشاره می کند و سرعت دقیق را می گوید. وقتی زمان ترک قطار فرا می رسد اپراتور به جدول زمانی اشاره می کند و زمان را می گوید. در سرتاسر این پلتفرم سایر کارکنان نیز همین اقدامات را انجام می دهند. پیش از حرکت هر قطار، پرسونل به لبه پلتفرم اشاره می‌کنند و می‌گویند همه چیز مرتب است. همه جزئیات، شناسایی، اشاره و با صدای بلند مطرح می‌شوند. این پروسه که تحت عنوان اشاره و فراخوان شناخته می‌شود، سیستمی امنیتی است که برای کاهش اشتباه طراحی شده است. احمقانه به نظر می‌رسد اما بسیار خوب جواب می‌دهد. اشاره و فراخان میزان خطا را 85 درصد و تصادف را 30 درصد کاهش می‌دهد. سیستم متروی MTA در نیویورک یک نسخه اصلاح شده از این روی را به کار گرفته است که صرفاً اشاره‌ای نام دارد. با دو سال اجرا، رخدادهای ناشی از تردد متروها را به میزان 57 درصد کاهش داده است. اشاره و فراخان تا این حد موثر است، زیرا میزان آگاهی از یک عادت ناخودآگاه را به گونه افزایش می دهد که خداگاه تر می شود. از انجایی که اپراتورهای قطار باید از چشمها، دستان، دهان و گوشهایشان استفاده کنند، احتمال اینکه مشکلات را پیش از وقوعشان متوجه شوند، افزایش می آبد. همسرم نیز کار مشابهی را انجام می دهد. هر زمان که آماده میشویم تا به سفر برویم، به صورت شفاهی ضروری ترین هایی که باید در چمدانمان باشند را بیان می کند. کلیدهایم را دارم، کیف پولم را دارم، عینکم را برداشتم، شوهرم را هم که برداشتم. هر قدر یک رفتار بیشتر به صورت خودکار صورت گیرد، احتمال اینکه آگاهانه و با تفکر قبلی آن را انجام دهیم کاهش میابد و وقتی یک کاری را پیشتر هزار بار انجام داده ایم کم کم به آن سرسری نگاه میکنیم. فرض میکنیم که دفعه بعد هم مثل آخرین بار انجام میشود. آنقدر به کارهای همیشگیمان عادت میکنیم که دیگر از خودمان نمیپرسیم انجام چون این کاری درسته است یا خیر. بسیاری از نقصانهای عمل کردی ما را می تا حد زیادی به فقدان خداگاهی نسبت داد. یکی از بزرگترین چالشهای تغییر عادت، حفظ آگاهی نسبت به کارهایی است که واقعا در حال انجامان هستیم. بدین ترتیب می توضیح دهیم که چرا عواقب عادتهای بد می توانند قافلگیرمان کنند؟ ما به یک سیستم اشاره و فراخان برای زندگی شخصی خودمان نیاز داریم. سرمنشای کارت امتیازی آدت همین است. رویه ی ای که می توانید از آن برای کسب آگاهی بیشتر نسبت به رفتارتان بهره بگیرید. برای اینکه کارت امتیازی خودتان را بسازید، فهرستی از روزمره روزمرهیتان تشکیل دهید. این، یک نمونه است که میتواند شروع فهرست شما را نشان دهد. بیدار شدن خاموش کردن آلارم بررسی گوشی رفتن به دستشویی، وزن کردن خودم دوش گرفتن مسواک زدن دندانها کشیدن نخ دندان عطر زدن آویزان کردن حوله تا خشک شود لباس پوشیدن درست کردن یک فنجان چای و غیره وقتی یک فهرست کامل ایجاد کردید به هر رفتار نگاه کنید و از خودتان بپرسید آیا این یک عادت خوب یک عادت بد یا یک عادت خنسا اگر یک عادت خوب است یک مثبت کنار آن بگذارید اگر عادت بدی است یک منفی کناران بگذارید. اگر یک عادت خنساست علامت مساوی را قرار دهید. مثلا فهرست مسکور می تواند این گونه باشد. بیدار شدن با علامت مساوی، خاموش کردن آلارم با علامت مساوی، بررسی گوشی با علامت منفی، رفتن به دستشویی با علامت مساوی. وزن کردن خودم با علامت مثبت دوش گرفتن با علامت مثبت مسواک زدن دندان با علامت مثبت کشیدن نخ دندان با علامت مثبت عطر زدن با علامت مثبت آویزان کردن حوله تا خشک شود با علامت مساوی لباس پوشیدن با علامت مساوی درست کردن یک فنجان چای با علامت مثبت علامت هایی که به هر عادت به خصوص می دهید به موقعیت و اهداف شما بستگی دارد. برای فردی که تلاش می کند وزن کم کند، خوردن یک نان شیرینی همراه کره بادام زمینی هر روز صبح می یک عادت بد باشد. برای فردی که تلاش می کند بدنش حجم بگیرد و ازوله بسازد، همین رفتار، می تواند یک عادت خوب باشد. تمام این موارد به آنچه برای رسیدن به آن تلاش می کنید، بستگی دارد. البته یک دلیل دیگر هم هست که می تواند امتیاز دادن به هایتان را اندکی پیچیده تر کند. برچه از پای عادت خوب و عادت بد تا حدودی نسبی هستند. عادت خوب و عادت بد نداریم. فقط عادتهای موثر داریم. منظورم تاثیر است که در حل مسئله دارند. همه ای به نوعی در خدمت شما قرار می‌گیرند. حتی عادات بد و به همین دلیل آنها را تکرار می‌کنید. بر اساس همین رویکرد، عادات خود را بسته به منافعی که در طولانی مدت برایتان دارند، دست بندی کنید. به بیان کلی، عادات خوب در نهایت خروجی‌های مثبتی را برای شما به همراه دارند. عادت‌های بد هم خروجی منفی خواهند داشت. کشیدن یک سیگار می تواند استرس فعلی شما را کاهش دهد یعنی از این طریق در خدمت شما قرار میگیرد اما در طولانی مدت یک رفتار سالم محسوب نمی شود. اگر هنوز هم برای رتبه بندی یک عادت مخصوص مشکل دارید می از چنین پرسشی بهره بگیرید. آیا این رفتار به من کمک میکند به شخصیت مد نظرم برسم؟ آیا این عادت یک رأی را به نفع هویت مد نظرم صادر خواهد کرد یا به ضرر آن؟ عادت که هویت مد را تقویت میکنند معمولا خوبند. عادت که با هویت مد نظرتان در تضادند معمولا بد قلمداد میشوند. وقتی کارت امتیازی عاداتتان را می‌سازید در ابتدا نیازی به ایجاد تغییرات نیست صرفاً هدف این است که بفهمیم چه اتفاقاتی رخ می‌دهند افکار و اقداماتتان را بدون جانبداری یا وارد کردن نقدهای درونی مشاهده کنید خودتان را به خاطر تخسیراطتان سرزنش نکنید به خاطر موفقیت‌هایتان هم خودتان را تشویق نکنید اگر هر روز صبح یک تخته شکلات میخورید از این موضوع آگاه شوید. همانطور که رفتار دیگران را زیر نظر می گیرید. اوه، چقدر خوب میشد اگر آنها فلان کار را انجام می دادند. اگر پرخوری می کنید، در نظر داشته باشید که کالری بیش از حد لازم را میخورید. اگر زمانتان را به صورت آنلاین تلف می کنید، متوجه شوید، عمر خود را به شیوهی می‌گذرانید که مد نظرتان نیست. اولین گام برای تغییر عادات بعد یافتنشان است. اگر حس می کنید به کمک بیشتری نیاز دارید پس سیستم اشاره و فراخان را در زندگی خودتان امتحان کنید. آن اقدامی که در فکرش هستید و نتیجه احتمالی آن را با صدای بلند بگویید. اگر میخواهید عادت مصرف فستفود خود را کاهش دهید اما در صدد برداشتن یک کلوچه هستید با صدای بلند بگویید قرار است این کلوچه را بخورم اما به آن نیازی ندارم. خوردن آن باعث می وزنم زیاد شود و سلامتی هم آسیب ببیند. شنیدن عادت بد با صدای بلند باعث می شود به آن واقعی تر به نظر برسند. به جای اینکه بدون تفکر سراغ یک عادت قدیمی بروید قبه آن کار در نظرتان بیشتر خواهد شد. حتی اگر صرفاً میخواهید اجرای یکی از وظایف روزمره خود را از یاد نبرید، باز هم این روی کرد مفید خواهد بود. فقط با صدای بلند بگویید، فردا باید بعد از نهار به اداره پست بروم و همین موضوع احتمال انجام این کار را بیشتر خواهد کرد. شما به خودتان یادآوری می کنید که باید این کار را انجام دهید و همین امر تفاوتها را رقم خواهد زد. پروسه تغییر رفتار همواره با آگاهی آغاز می شود. استراتیجی چون اشاره و فراخان و کارت امتیازی عادتها برای این هستند که عادتهایتان را بشناسید و از سرنخهای محرکشان اطلاع پیدا کنید. بدین ترتیب می توانید به شیوه ای واکنش نشان دهید که در نهایت به نفعتان تمام شود. خلاصه فصل با تمرین کافی مغز شما می تواند بدون تفکر خداگاه سرنخهای های منتج به خروجی معین را شناسایی کند. وقتی عادت هایمان خودکار شدند دیگر به کاری که انجام می دهیم، توجه نمی کنیم. پروسه تغییر رفتار همواره با آگاهی آغاز می شود. باید ابتدا آدتهایتان را بشناسید تا بتوانید آنها را تغییر دهید. روش اشاره و فراخان با بیان شفاهی اقدامات، موجب افزایش آگاهی شما نسبت به آدتهای ناخداگاهتان می شود. کارت امتیازی عادتها روی کردی ساده است که می توانید از آن برای کسب آگاهی بیشتر نسبت به رفتارتان بهره بگیرید.